سلام و تشکر از حضورتون ما در وهله اول باید بگم من در واقع حدودا دو روز پیش مطلع شدم که قراره که صحبتی داشته باشم اینجا و به هر حال فرصت چندانی برای اینکه بحث خیلی شص رفته ای را آماده کنم نبوده به حال میبخشید در واقع اولم که این مسئله مطرح شد که در این جلسه صحبت کنم من دنبال موضوع هم میگشتیم که راجع راجب چه موضوعی صحبت صورت بگیره یه موقع برای خود من این مسئله پیش من از بهتر اصلا راجب خود همین حرف زدن و تشکیل جلسات و سمینار ها و همایش ها و کنگره ها صحبت کنیم استادان راجبه اصلا همین علاقه به حرف زدن که تو فرهنگ وامسک خیلی عملا این روزا خیلی رشد زیادی داره. و دا استادان این فرهنگ شفاهی و گسترش این فرهنگ شفاهی و این همه سخنرانی و جلسات و همه اینا. و یه مقدار من یاد یه صحبتی که زمانی در مورد موقع سقوط رژیم شعروی این منعقدی گفته بود که این جامعه و این حکومت استوار بر کلمه بوده و همین دلیل هم فقط با صرف رفتن یه ده افراد تو خیابون و مهده شدن چند کلمه دیگه فرو ریخته این من اگر میاد واقعا بعضی فرهنگ ها تکیهشون امدتا روی کلمه و کلمات. بله به هر حال خود همین قضیه علاقمندی به فرهنگ شفاهی و کلمه با موضوعی که انتخاب کرده بودیم یه ارتباطی پیدا کرد چون قرار شد در مورد در واقع توسعه نیافتگی و مدرنیته با تکیه روی کتاب برمن نهایت صحبت کنیم و ملاحظاتی که در واقع توی فصل ما قبل آخر این کتاب در مورد مدرنیته استوار بر یک نظام اقتصادی اجتماعی توسعه نیافته مطرح شده و از غذا خب مونتن نکته ای هم که فرمن در این زمینه مطرح میکنه اتفاقا همین علاقه این نوع مدرنیته به کلمه است و ریشش هم برمیگردونه در واقع به مسئله همین توسعه نیافتگی و اینکه چون این مدرنیته است که عملا روی واقعیت استوار نیست یعنی روی یک مدرنیزاسیون واقعی استوار نیست بنابراین ناچارن از خیال تغذیه میکنه ناچارن از تصوراتش تغذیه میکنه و در واقع بیشتر از اون که بتونه هویت خودشو به صورت واقعی در یه واقعیت اجتماعی اقتصادی پیدا بکنه هویتشو در خیالات در برنامه هایی که برای آینده برای خودش در پیش داره و در و هر حال نوعی کلنجار رفتن و آن چیزهایی که نداره در واقع پیدا میکنه و روی همین اصل هم این خب مسلمن در یه همچین خب فرهنگ شفاهی و ارتباط با کلمه هم خب خیلی واضعی که چرا پیش میاد اگه بخوایم واقعا بحث خود برمن رو یه مقداری تو این زمینه بشکافیم همونطور که گفتم مهمترین چیزی که برمن تو این زمینه بهش اشاره می‌کنه اینه که مدرنیزاسیون برای این گونه جوامه در واقع فرآیندی است که رخ نمیدهد حالا هم مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی هم مدرنیزاسیون در واقع روح یا جنبه فرهنگی مدرنیزاسیون. در هر دو موردش خب نمونه‌ای که برمن اینجا مطرح می‌کنه روسیه تزاری است. به جامعه اشاره می‌کنه که از نظر اقتصادی نیاز به مصرف کالاهای جدید، نیاز به مصرف تکنولوژی جدید و در واقع میشه گفت همان صوقات فرنگ درش ایجاد شده ولی عملاً از روابط و نحات هایی که اجازه تولید این کاله ها رو در خود اون کشور بده جلوگیری میکنه نتیجهش در واقع همین یه جامعه ای میشه که خب نیاز به مصرف کالاهای های مدرن درش ایجاد شده منتها زیر ساخت اقتصادی و اجتماعی که برای تولید این کالا های احتیاج هست وجود نداره نه فقط وجود نداره بلکه موانع و سطح های خیلی عدیده هم در راه ای همچین ایجادی ای همچین ساختارهایی درش به چشم میخورید. عین همین مسئله رو در زمینه همین روانی در قسمت بسیارا مدرنیزاسیون روح و در بقیه اون چیزی که به زندگی درونی افراد مربوط میشه باز ما میبینیم یعنی از یک سو نیازهای مدرن نیاز به آزادی نیاز به فردیت نیاز به نوعی استقلال و خداینی در افراد ایجاد میشه به خاطر حال همین تماسی که با حالا نوعی مدرنیت های وارداتی داشتن ولی نهادهای اجتماعی اجازهی برآورده شدن این نیازها رو نمیدن یا فضایی برای اینکه این نیازها واقعا درش تحقق پیدا بکنه به وجود نمیاد و در نچه خود مدرنیزاسیون روح هم به عنوان یک فرایندی که رخ نمیده تجربه میشه و من دقیقا روی این رخ نمیده تاکید دارم برای اینکه بعدا به این مسئله میرسیم که این حالت غیبت، این رخ ندادن اینکه یک واقعیتی یا یک فرهنگی تکیهش بر نبود یک چیز باشه خیلی فرق میکنه تا فرهنگ یا وضعیتی که برحال بر حضور و وجود داشتن یک سری مسائل متکیست کلن دونو قویت اینجا پیدا میشه بسته به اینکه ما واقعا با نوعی حضور روبرو هستیم با یا با نوعی غیبت اینجا در واقع همه نظر اقتصادی و اجتماعی و همه نظر فرهنگی و روانی ما با مدرنیته ای رو به رو هستیم که بخور خوش بر توصعه نیافتگی یعنی بر نبود توصعه بر قیبت توصعه استوبار من بعدم نمیاد شاید یه بخشی از خود همین توصیفی که برمن از این قضیه ارائه میده به بیجر نظر ارتباطش باز با همین جنبه کلمه و خیال رو براتون بخونم که واکنشی که در افراد ایجاد میکنه اینو مدرنیته استوار بر علاوه توسعه نیافتگی. در صفحه 283 در مقایسه با مدرنیته ای که در پاریس حالا در زمان بودلر اتفاق افتاده میگه در بوت مقابل مدرنیست میرا میابیم که از دل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی برمیخیزن این نوع مدرنیسم نوستالژی بار در روسیه و به دراماتیک ترین در شکل در سن پترزبورگ در قرن 19 ظاهر گشت. در دوره خود ما همراه با گسترش مدرنیزاسیون، البته عموماً مدرنیزاسیونی عقیم و تحریف شده نظیر روسیه ای کهان، این نوع از مدرنیسم در سراسر جهان سوم گسترش یافتند. مدرنیسم مبتنی بر توسعه نیافتگی به ناچار باید جهان خود را بر پای خیالات و رویاهای مدرنیته برپا سازد. و خود را با تداخل و تقرب به سرابها و اشباه تغذیه کند این مدرنیزم برای صادق ماندن نسبت به حیاتی که منشء آن بوده است به ناچار باید خشن و خام شکل نیافته و آمیخته به جیغ و جنجال باشد این نوع مدرنیزم علیه خود میشورد و خود را شکنجه میدهد که چرا قادر نیست یک سنه تاریخ را عوض کند یا آنکه خود را به آغوش تلاشهای اغراقآمیز برای بدوش گرفتن تمامی بار سنگین تاریخ پرتاب میکند این مدرنیزم خود را با زجر و خشونت به سوی تخطیر نفس جنونآمیز میراند و فقط به توانایی عظیمش در طعنه زدن به خیش می‌تواند خود را حفظ کند اما آن واقعیت عجیب و غریبی که خواستگاه این مدرنیزم است و فشارهای تحمل‌ناپذیری که بر حیات و حرکت آن وارد می‌شود فشارهای اجتماعی سیاسی و همچنین فشارهای معنوی درخششی آمیخته به خشم و جنون در آن ایجاد می‌کنند که مدرنیسم غربی به رقم سازگاری بسیار عمیق ترش با جهان به ندرت قابل قادر به رقابت با است. من این تیکر خوندم چه خیلی در واقع میشه گفت موجد و خلاصه لاغل واکنش روانی این نومدرنیتر رو نسبت به وضعیت خودش به روشنی بیان کرده البته قرارن که خواهیم دید اینکه انتخاب میکنه مثال روسیه رو خودش در واقع جای تعامل داره بعدا ما به این دکتر خواهیم فرداختی آیا واقعا سر همین حدی که ورمن میگه روسیه روسیه قرن 19 هم میتونه به صلا نمونه یا الگوی کاملا گویایی برای کل جهان سوم باشه و یا اینکه در واقع نه این برخلاف لاقل از نکاتی که من در همین همینقدر ازهک میکنه بیشتر در واقع به خاص روسیه و مثالی است که اون انتخاب کرده و نمونه شما در کل جهان سوم نمیبینیم برای مثال حالا اگه کمی از همین حالا بخوام بگم خب درسته که به یه معنا درگیری با خیال و با سراب و با اشباه جزی از این مدرنیزم عقب افتاده است از اونجا که همونطور که گفتیم عملا استوار بر نبود مدرنیزاسیونه خب پس باید در خیال خودش این مثله رو باستازی کنه حتی شیوه تماسش با مدرنیته، فرزن در شکل مطرف کالاهای های مدرن باز خودش عملا نوعی زمینه برای نوعی رابطه تخیلی و اینکه خب مطرف خصوصاً برای کالاهای های مدرن آمیختست با همونطور که میدونید مسئله تبلیغات و کلی بستبندی کالاها و تمام اون فضای به روانی و خیالی که در هر نوع سیستم مصرف طم... انبوه شما می‌بینید که وجود داره نوعی مصرف کننده رو به هر حال به یک عالم خیالی سوق میده تا بتونه که خب اون کالای مورد نظرش رو به برسونه و بنابراین مدرنیتی هم که فقط با جنبه مصرفیه کاله های مدرن ارتباط داشته باشه با خود به خود به سوی نوعی زندگی خیالی رونده میشه منطقه و این زندگی همونطور هم که باز برمن میگه بله خشن و خامه شک نیافتت آمیخته به جیه و جنجال این همون ای که گفتم مسئله کلمات و حرف زدن بیش از حد ولی این میگه این نوع مدرنیزم علیه خود میشورد و خود را شکنجه میدهد خب این نکته است که جای تعامل داره یا اینکه اشاره میکنه که فقط به یاری تا... توانایی عظیمش در تنه زدن به خیش میتواند خود را حفظ کند این هم باز نقطه است که در واقع نمیشه گفت به سادگی نمیشه اون را سرایت به کل جهان سوم و کل انباع دیگه مثلا مدرنیزم توسعه نیافته من برای این وضعی مقدارم چون عملا بیشتر بر نوع واکنش میشه گفت حالا تا حدی روشنفی یا واکنش روشنفکران به این وضعیت بحث رو میخوام پیش ببریم شاید بد نباشه که در واقع یه قطعه دیگه ایر که مربوط میشه به واکنش شخص داستایفسکی به یه همچین وضعیتی رو باز براتون قرار کنم که دقیقا این توصیف کلی که به در این قطعه کرده ما به شکل خاصش میتونیم در مورد یک روشنفکر نمونه یعنی فیودور داستایفسکی ببینیم که چگونه حملن هویت خودش رو و مدرنیتی رو که خودش ازش در اومده در بر همین اساس بر اساس آنچه که نیست بر اساس نوعی هویت واکنشی بنا میکنه. این قطعه برمی به قسمتی از یادداشتایی که داسته در طول سفرش به اروپا نوشته یادداشتایی زمستانی در باب تأثیرات تابستانی دفترچه یاد سفر سال 1862 داستان برمی به سفر داستویسکی به شهر کلون در اون شهر اول در واقع به دیدار کلیسای جامعه شهر کلون میره که یه بنای خیلی زیبا و عظیم قرون است. ولی از این بنا خیلی راحت صرف نظر میکنه. بپس به سراغ مهمترین ساختمان مدرن شهر می پلی کاملا نوسااز. و در مورد این پل با میگه میده پل پول است و شهر نیز به درستی به دان افتخار می کند. اما من حس کردم که این افتخار بیش از اندازه است. طبیعتا طولی نکشید که از آن زده شده. به هنگام پرداخت آواز اوعب از پل برای از مسلم مسللم می شود که معمور اخس آوارض دارد به او توهین می کند. آن هم باز این جمله از خودش با نگاهی کسی که مرا به خاطر جرمی نامعلوم جریمه می کند. حتی چند لحظه خیال بافی و ها توهین جنبه ملی پیدا میکند باز میگه حتما حد حت زده بود که من خارجیم در واقع فهمیده بود که من روسم چشمان نگهبان پل آشکارا به او میگفتند پل ما را میبینی ای روس مفلوک میبینی که در برابر پل ما توی کرمی در برابر هر فرد آلمانی چون شما روسها صاحب چنین پلی نیستید نگ داستسکی از آن دارد که این ح به احتمال استما... قوی بی اساس است نگهبان پل به واقع نه حرفی زد و نه اشاره ای کرد و چین افکاری نیز احتمالا هرگز به ذهنش خطور نکرد. اما خود داستسکی ونیس اما این امر چیزی را عوض نمی کند در آن لحظه چنان از نیت دقیهوی مطمئن بودم که به کلی اختیارم را از دست دادم. به عبارت دیگر خشم و عصبانیت روس عقب از ادعای برتری آلمانی پیشرفته ناشی نمی شود. حتی اگر فرد آلمانی چنین ادعایی نداشته باشد باز هم به با قول داستویسکی این هم چیزی را حوض نمی کند ریشه اصلی حس به حقارت خود اوست داستویسکی با خود می گوید لعنت بر تو ما سماور را اختراع کردیم ما نشریه و مجله داریم ما هم همان کارهایی را می که افترها می کنند شرم و خجالت او از عقب ماندگی کشورش و فوران خشم آمیخته به حسادت علیه این نماد رشد و توسعه باعث می شود تا او نه فقط کل بلکه کل, کل کشور را ترک کند. بس اینکه ایران قطار بعدی به پاریس می شود با این امید که فرانسوی ها خیلی خیلی جذابتر و باوقارترند، البته موعدم می‌دانیم که در فرانسه یا در هر کشور غربی دیگر چه حادثه‌ای برای او رخ خواهد داد. چه مناظر اطراف او زیباتر و چشمگیرتر باشد بغض و و در نتیجه عیده او از تشخیص واقعیت ها بیشتر می شود این قسم در واقع همه اون نقاطی رو که اونجا به صورت کلی زد کردو در مورد یک روشن فکر خیلی برجسته روس ما می بینیم حالت خیال باخانش رو و حساسیت بیش از حد اون حالت خودخوری و کلنجار رفتن با خود و مهمتر از اون در واقع فراعف کندن احساسات و کمبودهای خودش به طرف مقابل و اون نگهبان پل که اصلا حرفی نزده و هیچ صحبتی هم نکرده ولی داستویسکی فکر میکنه که در واقع داره به اون و به عنوان یه روس عقب موندهی که چنین پلی نداره توهین میکنه و این یه سیکل بسته است که همونطور که برمن میگه هر جا بره در داخل این سیکل گیر میکنه هرچی مناظر اطراف تیشرفته تر و زیباتر باشن روشن فکر روسی که از یک مدرنیته تصنیعی نیافته اومده بیشتر اسیر این احساس نفرت ناشی از حقارت و اسیر این هویت واکنشی میشه و به همین علت هم هستش که در واقع عملاً درگیر با خودخوری درگیر با جیغ و جار و جنجال و درگیر با کلمات میشه در درون خودش الب این دو موردی که من خوندم در واقع هر دو تا نشون دهنده همون چیزی بود که به عنوان هویت مبتنی بر واکنش من ازش اسم بردم یه مقدار مایلم حالا راجع به خود انتخابی که من کرده صحبت کنیم تا بعد این مسئله در واقع هویت واکنشی رو از طریق برخی مفاهمی که نیچه مطرح کرده یه مقداری بیشتر با کنیم و بعد ارتباط اونو احتمالا به تجربه مدرنیته در جهان سوم و حالا احتمالا تجربه ای که فردا خودمون از انگردیه در طول تاریخ معاصر داشتیم تحلیلی که برمن از روسیه ارائه میده در واقع استوار بر این فرض که استبداد سیاسی که در دوران نیکولای اول برقرار شد تو روسیه پ از اون که الکساندر اول فروار آزاد کرد و چنین به نظر میرسید که روسیه قدم در راه لیبرالیسم غربی و دموکراسی و اصلاحات گذاشته و میره به اون س ولی خب اصلاحاتی که الکسان کرده بود در واقع بی پایه بود ظاهر سازی بود عملا سروها بیشتر حتی به زمین و به نهادهایی ف اودای وابسته شدن و واکنشی هم که در این قضیه پیش آمد یعنی همون قیام دسامبرستان به جای نرسید و نهایتاً روسیه تبدیل شد به ژاندارم اروپا و به اس... در واقع نوعی مستبدترین حکومتی که در اون زمان در اروپا برپا شده بود. به من نشون میده که چگونه پترزبورگ به عنوان سمبول مدرنیزاسیون مدرنیزیشن سمبل پنجره روسیه به سمت اروپا عملاً درگیر این استبداد سیاسی میشه یعنی پترزبورگ به عنوان یه فضایی که ساخته شده دقیقاً برای اینکه این لیبرالیسم رو اول در خودش جای بده و بعدم به باقی مناطق روسیه انتقال بده عملاً اون پنجره بسته میشه حکومت حتی راه رشد اقتصادی را سد میکنه برای اینکه میترسه که, می که رشد اقتصادی طبقات و اخشار جدیدی به وجود بیاره که این نیازهای مدرن و نیاز به دموکراسی یا حقوق فردی و حقوق بشری درشون ایجاد بشه من این حتی به عبب موندگی اقتصادی خودش افتخار میکنه اما با بسته شدن اون پنجره این شهری که در واقع قرار بود تمتون غربی رو به روسیه انتقال بده وضعیت خاصی پیدا کرد اونجوری که برمن توصیف میکنه اینه که وقتی سیاست بسته شد پترزبورگ عملا به دنبال ادبیات و فرهنگ ده. به عبارت دیگه پس از سرکوب قیام دسامبرست خیابان های یا خانه های روشنفکران پترزبورگ دیگه جای نشستن برای بحث سیاسی یا تش... تظاهرات سیاسی یا هر حال ساختن نهاد های مدنی جدید نبود بلکه اتاق هایی بود که درش روشنفکران منذوی و تنها و سرکوب شده مجبور بودن نیازهای خودشون و هر حال احتیاجاتی رو که زندگی مدرن درشون ایجاد کرده بوده در حیطه ادبیات، در حیطه خیال جستجو کنه. به همین علت هم روسیه قرن 19 در واقع یکی از سنت های ادبی اون قدر رو به وجود آورد که خب اصلا مش که برای همه آشناست دیگه از پوشکین بگیرید تا گوگل و داستفسکی و تولستوی و تورگنیف و چخوف و در واقع یه دوره عجیب و غریبی در تاریخ روسیه است که به طور ناگهانی ما با علان فورانی از نبوغ امدتا در حیطه ادبیات روبرو میشیم بنابراین همطور که برمن میگه میشه گفت ما با نوعی انتقال انرژی روبرو رو هستیم انرژی مدرنیته از حیطه سیاسی انتقال پیدا میکنه فرزن به ادبیات. یه نمونه دیگه هم در تاریخ جهان هست که یه همچین وزی داره و بیشتر هم به قرن بیستون برمیگرده اون نمیرم نمونه هم در واقع امریکای لاتین. در مورد کشورهای آمریکای لاتین هم ما با همین وضعیتی روبرو هستیم از زمانی که اه اه به نوعی این کشورها مستقل میشن از اسپانیا یا از پرتغال و قدم در راه مدرنیته میگذارن از زمان سیمون بولیوار خیلی از اونها در ابتدا میرن به سمت تشکیل به حال همین نظامهای دموکراتیک و استوار بر قانون و حقوق فردی ولی در عمل خوب شکست میخورن و می تو همون مدار توسعه نیافتگی مدار نبود مدرنیزاسیون یا مدرنیزاسیونی که عملا رخ نمی دهد و در مورد این کشور ما باست شاهد این هستیم که بست شدن سیاست و سرکوب سیاسی و سرکوب دموکراسی در اکثر کشور های امریکای لاتین توی قرن بیستم منجر شد خودتا از نیمه قرن به این و منجر شد به یک فوران عددی درخشان و باز با روشن فکران منظوی رو به هستیم که حالا باز این دفعه فرار کردن از کشورهای خودشون از کلمبیا از اکوادور، از آرژانتین و بریزیل و شیلی و در، عمدتا در پاریس مشغول باز همین سیال پروری و در واقع تجربه مدرنیسه در عرصه خیال هستن که در این مورد هم باز قضیه بیشتر برمیگرده به رمان و ادبیات که باز هم با نامهاش دیگه آشنا هستید دیگه از برخست بگیریت تا مارکز و وارگاسیوسا و دیگه ده ها چهره ای که در این سالهای اخیر مطرح شدن مثلا اکتاوی و پاز الان. جالبه که خب این دو مورد به یه نوع مورد آمریکای لاتین به نظر میاد که تحلیل برمن از روسیه رو در واقع تایید میکنه تا یه حدی. ولی خب به نظر میاد که در واقع تصری دادن این تحلیل حالا چه از نظر واکنش های روانی یا اون حوییت واکنشی که شکل میگیره که نمونش فرزن آدمی مثل داستایفسکیه و چه از نظر اینکه خب وقتی سیاست و ببندی این انرژی انتقال پیدا میکنه به عرصه ادبیات به نظر میاد انتقال این به کل جهان سوم واقعا یه مقدار از نظر باقیات تاریخی پاش لنگه و چیزی نیستش که به این سادگی بشه این رو به کل جهان سوم انتقال داد در واقع ما یه همچین نمونهی رو در جای دیگه نمیبینیم روسیه و آمریکای لاتین هم به یه معناه در یه سری استثناءات با هم دیگه شریکن یعنی اولا تا اونجا که حتی به مدرنیزاسیون اقتصادی مربوط میشه ما میبینیم که سطح خیلی بالاتری از رشد رو دارن یعنی واقعا آمریکای لاتین از نظر رشد تکنولوژی و اقتصاد اصلا قابل مقایسه با از آفریقا یا آسیا یا خاورمیانه نیست روسیه هم همینجور روسیه هم در قرن 19 بعد از اینکه نیکولا اول سقوط کرد و اون دوره افتخار به عقب ماندگی تموم شد در اون دهه هشتاد و نود آخر قرن 19 یک جهش اقتصادی خیلی سریع کرد به صورتی که پترزبورگ عملا تبدیل شد به شهر کارگری که بعدا انقلاب 1905 درش رخ داد عملا شهری بود که از نظر اقتصادی دیگه کاملا مدرنیزه شده بود و به قولی که برمن میگه پنجمین شهر بزرگ در واقع مدرن جهان اون زمان بود هر دوی و بعد نکته مهمتر این که هر دوی اینها یعنی هم روسیه و هم آمریکای لاتین به هر حال یه پایی در فرهنگ غرب دارن یعنی در هر دو مورد ما با یک نظام فرهنگی با یک سنت یا یک گذشته کاملا غیر اروپایی روبرو نیستیم اولا مسیحیت که خب سازنده فرهنگ این دو کشور تا حد زیادی خب مهمترین وچه مشترک که این دو تاست با جامعه اروپایی و با تاریخ اروپا و اگه بپذیریم که خب مسیحیت در شکل گیری مدرنیت آمل بسیار اساسی بوده که اعتقاد من هم بر اینه بر این که خب روسیه و آمریکای لاتین عملا وضعشون با باقی جهان سوم خیلی فرق میکنه اونا به خاطر دقیقا اینکه در فرهنگ و سننشون به هر حال با مسیحیت رو به رو هستند و از طریر مسیحیت در واقع کل تاریخچه قبلی اروپا و سنت های اروپایی درشون حضور داشته. عملاً یک وضعیت استثنایی پیدا میکنن در قیاس با سایر کشورهای جهان سوما و بنابراین نه فقط در نظر اقتصادی و اجتماعی ما می که شاهد یک رشد خیلی بالاتری هستیم در آمریکای لاتین یا حتی در روسیه تزاری بلکه از نظر مدرنیزاسیون روح اون جنبه دوم یعنی جنبه فرهنگیش هم ما می که در روسیه و آمریکای لاتین ما با یک وضعیت خاص روبرو رو هستیم و با مثلا جامعه ای که واقعا امکان تحمل در نقص رو داره حالا ممکنه برال به قول بر من آمیخته به خیال و یا به نوعی تغذیه کننده از اشباه و سراب ها باشه ولی به هر حال میتونه این تغذیه رو بکنه لاغل میتونه با اون اشباه روبرو بشه با اون سراب ها کلنجار بره یا همونطور که خودش گفت به خودش تنه بزنه خودخوری بکنه خودش رو به درون ماجراجیی های بزرگ پرتاب بکنه بخواد بار همه تاریخ و به دوش بکشه و جهان رو دگرگون بکنه و همه اینا همون درخششی رو که به میگه بهش میبخشه و همین درخشش هم هست که خب در زمینه ادبیات وقتی میزنه بیرون یهو ما با صلحبه داسفسکی یا با مارکز و اکتامویو پاز روبرو رو میشه. مط آیا این واقعا برای کل جهان سوم با مناس یعنی به نظر میاد که به هر حال روسیه و آمریکای لاتین آن حد از فردیت یا آن حد از توانایی تعمل در نفس و درگیر شدن با مدرنیته با ابهامات مدرنیته با تناغذات مدرنیته با پیچیدگی ها و شاید حتی بشه گفت زیبایی و فساد مدرنیته با همه اینا این توانایی رو توانایی درگیری رو دارد و دقیقا همین توانایی هم هست که بهش اجازه میده هم در حیطه اقتصادی اجتماعی و مهمتر از اون در حیطه فرهنگی به هر حال نوعی از مدرنیت رو نوعی از مدرنیته میشه گفت دست کم نیمه آگاه رو بس بده من میگم نیمه آگاه برای اینکه خب حالا اون جنبه خیالیش شاید فرزن بتونیم بگیم اون جایی که از سراب یا از اشباه تغذیه میکنه آگاهیش آگاهی تحریف شده است و حال بر واقعیت استوار نیست ولی نفس خود این درگیری نفس خود اصلا رفتن دنبال یه همچین آگاهی و درگیر شدن با همون سراب ها و همون اشباه خودش حال نوعی خداگاهی مدرن رو کم و بیش ایجاد می‌کنه که حالا هم در اقتصاد می‌زنه بیرون هم در فرهنگ و خب نتیجه شمی میشه که به هر حال رقم شاید دوره از استبداد یا سرکوب به هر حال نهایتاً این جریان راه خودشو باز میکنه آمریکای لاتین به هر حال نهایتاً از مورد کوبا و کاسترو که بگذاریم به هر حال جای دیگرش واقعاً خلاص شدن از شر دیکتاتورهایی مثل نیکولای اول. و خب این به خاطر این بوده که یه دینامیزم درونی درشون بوده که اونا رو به این سمت روند. اینکه آیا این دینامیزم در کل جهان سوم وجود داره یا نه بحثی است که در نقد یا ایرادی است که میشه برمن گرفت که یه نوعی به نظرم میاد انتخاب روسیه به عنوان یک مدل تا یه حدی شده که برمن برخی مسائل رو بیش از حد کلی بکنه و روسیه رو به عنوان یک الگوی کلی در نظر بگیره البته نکته دیگه ای هم که در اول کتابش اشاره میکنه تا یه حدی برای باز شناختن این مودرنیسم توسعه نیافته ضروری و مؤثره اون هم مساله همون توسعه گرشی که در اول کتاب بهش اشاره میکنه و اتفاقا فرزن از شاه ایران هم اسم برای به عنوان یکی از نمونه های به اصطلاح پرمدعهای این قضیه که البته این برمیگرده به همون جنبه باط خیالی یعنی مدرنیزاسیونی که حضور داره بدون اینکه در عمل رخ بده طرح عجیب و غریب برای نوسازی و بازسازی برای حرکت در مسیر حالا تمدن بزرگ یا تبدیل شدن به پنجمین نام کشور صنعتی جهان و این خیال پروری هایی که در تمام این گونه کشورهای به اصطلاح جهان سوم ما با شوبرو رو هستیم که حکومت هایی که حداقل تکنولوژی مدرن و حداقل به اصطلاح ابزارهای مدرن رو در اختیار دارن و این بهشون اجازه میده که عملا کنترل خیلی سنگینی رو بر جامعه اعمال بکنن از این احدث اول ابزارها استفاده میکنن برای در واقع ساختن یک فضای خیالی که در قالب طرحهای عجیب و غریب باسازی و توسعه خودشو جلوه میکنه طرحهایی که به قول ورمند در عمل هیچ چیزی رو توسعه نمیده جز قدرت و ثروت همین حکام رو طرحهایی که عملاً شاید بیشتر بودجهشون صرف مراسم افتتاح طرح یا تبلیغات برای اون طرح میشه که خب ما در کشور خودمونم نمونه هاش کم نیست و عملا مثالی که این ذکر میکنه آبراهه که در دوره استالین توی روسیه میخواست کشیده بشه که در عمل به خاطر همین جنبه تبلیغاتی و همین خیال پروری و ساختن یه نمادی از توسعه و پیشرفت استالین انقدر به فشار میاره و تعداد زیادی از کارگره ها قربانی میشن و نهایتا با قول برمن نقطه جالب اینه که حاصل کارم هیچه یعنی مسئله حالا این نیستش که با زور و فشار یا با قربانی کردن کارگرهای کانالی ساخته شده مسئله اینه که کانالی که ساخته شده آخرتر ان نظر اقتصادی مفت نمیارده چون عملا جوریست که عمقش بندازه کافی نبوده تحت فشار به خاطر همین برنامه های تبلیغاتی و به خاطر نشون دادن که ما میتونیم یه تنه بدون ابزار تکنولوژیک خودمون مستقلن خودکفا بشیم و ما جلوی این در میاییم و تو دهنه اون میزنیم و میتونیم خودمون کانال بکشیم و نتیجه هم میشه یه کانالی که آخرش فقط قبرنگارهای خارجی که اومدن اونجا بر حال چند روزی تو مسکو مفخ بخورن و خوابن و بعدم چند تا سوغاست واسه زن و بچشون ببرن میان تو اون کانال سوار کشتی توریستی میشن رد میشن و بعدم میرن در روزنامه های خارجی قلم فرسایی میکنن درباره عجیب و غریبی که زیر رهبری آقای استالین فرضاً رخ داده یعنی عملا مسئله بازم همون غیبته چیزی که نمادی از مدرنیته که عملا وجود نداره علی رغم قیمت سنگینی که براش پرداخت شده چون این نکته خیلی مهمه چون برمن در واقع تاکیدش بر که مدرنیته قیمتی داره همه, همه جا هست یه جور حال یه تجربه تراجیکه تجربه است که شما ناچارن درش بخش های خیلی نزدیک بخش های خیلی حساسی از وجود خودتون رو از دست میدید درگیری با تناقضات خیلی حلنا شدنی میشید متاخ خب نتیجه ای داره این حاصلی داره این درگیری و این ترژدی و این حتی خودخوری. مسئله اون حالت توسعه گرفتش که قیمت پرداخته میشه عملا فاجعه رخ میده، افراد در اون کوورآ، توسعه مثل کرم زیر چرخهای این مدرنیزاسیون له میشن و آخرش هم هیچی یعنی آخرش هم هیچ توسعه واقعی رخ نمیده. خب این در واقع شاید بشه گفت حالا اگر رفتیم توی این مسئله کانال یه مقدارم خودش جالبه چون میشه گفت شاید مثلا بهتر بود در من روسیه زمان استالین رو عنوان مثال یا نمونه برمیگذید برای کل جهان سوم تا روسیه تداری رو که عملا ما در مورد شوروی هم می‌بینیم که باز اون مثالی که خودش در مورد روسیه زده تکرار نمی‌کنه یعنی مثلا تو شوروی وقتی سیاست بسته میشه ادبیات آنچنان گل نمی‌کنه و اون معنی که در زمان روسیه تزاری بود من در زمان استالین اگرچه خب به هر حال ادبیات روسیه هنوز غنی بوده ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با ادبیات قرن 19 یا اون رشد عجیب و غریب رمان در روسیه قرن 19 نیست مجموعه اینا در واقع می رسونه به این که ما یه مقدار نسبت شاید حتی کل مفهومی که من به کار میبره دید انتقادی تری پیدا بکنیم یعنی کل حتی خود این مفهوم توسعی نیافتگی آیا واقعا میشه در این حد از کلیت از یک مدرنیته یه توسعی نیافته صحبت کرد بر اساس یک الگویی که از روسیه گرفته شده یک بحثلا نظریه عام کلی راجع به همه جا داد که ما یک نوع مدرنیته داریم به نام مدرنیته مبتنی بر توسعه نیافتگی در تقابل با مدرنیته توسعه یافته غربی خب بعد که ما تا اینجا کردیم نشون میدی که خب به این شکل نیست قضیه یعنی در این سطح از کلیت واقعا نمیشه مسئله رو فرموله کرد و تیوریزه کرد مفهوم توسعه نیافتگی و نحوه ارتباطش با مدرنیته گره خوردن این دو با هم باید جا, جا در موارد خاص دیده بشه اینطور نیست که همه جا هر جا جلوی سیاست گرفته بشه یک ادبیات درخشان ایجاد میشه یا مثال دیگه ای که فرضاً برمن میزنه مسئله زندگی خیابان که در مورد سن پترزبورگ مطرح میکنه که همون بولوار نفسکی که خیابان است که درش تظاهرات سیاسی ممنوع شده در یه شهری که تحت کنترل استبدادی حکومت پلیسی نیکولای اوله و هیچکی چیکش نمیتونه در بیاد افراد رو هر وقت دلشون بخواد میگیرن مثل چرنیشفسکی زندانی میکنن تو سیاهچال میندازن به روس به سیبری تبعید میکنن اعدام میکنن و همه اون مسائل منتها بلوار میپسکی یه جوری برای روشنفکرها و برای کل مردم سن یه خط ارتباطی شده در کنار ادبیات این همونجور که رمان برای روشنفکرای منزوی مطرودی که دیگه نتونستن در سیاست و در واقعیت سیاسی اجتماعی را خودشون پیدا کنن سرکوب شدن و به همون اتاق‌های تنهای خودشون پناه بردند اینها سعی میکنن از طریق ادبیات اون احساس نیاز به ارتباط نیاز به بیان نفت نیاز به در واقع بیان نیازهای شخصی خودشون و همراهی همدمی و گفتگو و سایر انسانها اینکه شأنشون به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک فرد آزادی که مثل هر فرد دیگه از حقوقی برگ این نیازها رو در ادبیات، در واقع بروز دادن ادبیات شد کانالی برای ارتباطشون و در کنارش خیابان همون گولوار رسکی جایی که هم اشراف میتونن بیان هم کارمندای درجه سه هم حتی کارگرها جایی که هر روشن فکر در و فقیری که کبشش هم باشه باز میتونه بره و درش با آب زیباتری ثروتمند تا که از نزدیک روبرو رو بشه یعنی یک کانال ارتباطی جایی که دیگه اون کاست ها اون دیوارهایی که افراد رو از هم جدا میکنه حضور نداره و خیابانی است که شما درش اگه نمیتونید تظاهرات سیاسی بکنید ولی خب میتونید توش عاشق بشید میتونید توش دیده بشید و خودتون رو در معرض دید بذارید همونجور که در واقع در پاریس بودلر رخ میده عنوان یه نیاز مدرت، به عنوان اون نوع از اون نوع از گفتگو و ایجاد ارتباط که خواست زندگی مدرنه که درش در واقع نوعی از تنهایی با نوعی از اجتماع گیره میخوره چیزی که شما خب در یک جایی جز در یک متروپول یا یک شهر بزرگ نمیتونید سراغ بگیرید در واقع مجموعه نیازهایی که یک فرد میتونه در یک شهر بزرگ در, در درون خودش در روح خودش از طریق همین مدرنیزاسیون روح پیدا بکنه و کشف بکنه در این خیابات خب گرد میشه البته منهای سیاست بگن خب این مثال هم که باز برمن میدن این, این مثال هم باز قابل مثلا سرایت و کلی کردن نیست من نمیدنم چیزی نزیر بولوار نفسکی فکر نکنم در فرزن مثلا کشورهای خوابار میانه بتونه به این راحتی پیدا بشه نه, نه فقط اون جبه پیشرفته ای که کانال ارتباطی بود برای بیانه نیازهای انسان مدرن وجود نداره بلکه خیابون هم وجود نداره خیابونی که نمیشه درش تظاهرات کرد نمیشه درش عاشق شد و نمیشه درش بحث های فلسفی تو کافه ها کرد این این رو خیابون که حالا نمونه علاش بولوارهای پاریسی عصر بودلره خب تو سن پترزبورگ بوده ولی جای دیگه من در جهان سوم نشانی از بولوار نفسکی نمیبینم جایی که واقعا یه روشنفکر مدرن بتونه حتی اگر از نظر سیاسی سرکوب شده است لاغل از نظر درونی و روحی و فردی به یه شکلی خودشو نشون بده به یه شکلی ارتباط برقرار کنه برخی از تجارب انسانی رو لاغل دست کم در عرصه خیابان تحقق ببخشه و خب کل زیباشناسی کل اخلاق کل روانشناسی خاص این نوع زندگی رو کسب بکنه و در درون خودش بپرورونه و البته خب پیوند این این تجربه زیستن در خیابان با هنر ادبیات و فلسفه هم چیزی نیست که بشه به سادگی ازش گذشت اگه باز در روسیه هم داستایفسکی پیدا شد یکی از دلایلش هم همین بود که اونجا بولوار میفسکی بود اگه بولوار میفسکی نبود داستایفسکی و گوگل هم به این شکل پیدا نمی‌شدن کما که اصلا این بولوار همونطور که برمن نشون میده در ادبیات روسیه حضور عجیب و غریبی داره مثلا موضوع بسیاری از قصه ها بوده و جایگاه تحقق بسیاری از داستان ها و روایت ها بنابراین نبودی همچین بولواری در سایر کشورهای جهان سوم باز خودش به این معنی است که عملا این مدلی که برمن می سازه به این سادگی نمیشه انتقالش داد به جه دیگه حالا من دیگه سایی میکنم واقعاً بحثم و با یه قصلا تعمال کمی دقیق تر روی همون نفتهی که اول گفتم یعنی هویت واکنشی به پایان ببرم اه... که همونطور که گفتم اه... توصیفی که برمن میکنه از روسیه تزاری یا مثالی که خود من خود دادم از آمریکای لاتین اه... عملا با این اصطلاح هویت واکنشی که میخوام الان اینجا مطرح کنم خیلی جور در نمیاد یعنی میشه که شاید یه جور یه چیزی بین این حالت این هویت واکنشی با به هر حال نوعی هویت عادی که فرضاً در غرب افراد بهش دست یافتن این هویت واکنشی که در واقع یعنی اصلا کل این قضیه دغدغه هویت که به نوعی توی جهان سوم توی مدرنیته عقب مونده خیلی مطرحه در طول تاریخ ماثر خود ما هم دیده میشه این رو فکر کنم شاید بهترین راه فهمش این مراجعه به مفهوم نیچه اخلاق بردگان و تحلیل این هویت از طریق این مفهوم نیچه البته یه کمی ممکنه اقرا به نظر برسه و در واقع در هر مورد خاص باید این مفهوم نیچه ای اخلاق بردگان استوار بشه بر تاریخ انزمامی اون کشور یا اون موردی که داریم بررسی میکنیم چیزی نیست که باز به صرف یه فرمول کلی بیاد ولی به نظرم میرسه ابزار نظری مناسبی است برای اینکه حالا در هر کشوری یا هر گوشه از جهان سوم نوعی از تعمل در نفس انتقادی با این ابزار آغاز بشه حالا در تیه این هر و در ای این تعمل در نفس ممکنه این ابزار هم عوض بشه اصلا جاشو به چیز دیگه ای بده یا سویه از نظریه نیچه کنار گذاشته بشه اونو من الان کاری ندارم ولی به نظر میاد به عنوانی ابزار اولیه برای شروع این طرح این مسئله که اصولا فرضیت و مدرنیزاسیون روح در این کشورها به چه شکله و در واقع چه تضادهایی در درون روحه مردمان این کشورها وجود داره برای این بلکه این نکته مفهوم مناسبی است اخلاق بردگان هم همونطوری که نیچه میگه در واقع اصولا برای اون که نیست تمام اون بحثی که ما اینجا کردیم که مدرنیزاسیونی که رخ نمیده تمرکز بر خیالات تغذیه از اشباح نبود به اصطلاح تکنولوژی مدر نبود بولوار نیتسکی نبود حقوق سیاسی نبود آزادی ها همه جمعه صرفاً با یه سری نبودن ها قیبت ها سر کار داریم و این تجربه مدرنیتی عقب موندهی جهان سوام از این نبود میاد بیرون حالا نیچه در واقع مفهوم اخلاق بردگان رو دقیقاً بر همین قضیه استوار میکنه هم نداره نیچه هر حقوقیتی بر اساس نوعی فاصله گذاری و یه تمایز ایجاد میشه حالا با قول خ راون اشراف که از نظر تاریخی کاری ندارن که وجود داشته یا نه ولی اشرافی که نیچه ازشون صحبت میکنه کسایی هستن که فاصله میگذارن نوعی شوق به فاصله گذاری درشون هست و همین فاصله گذاری از نظر نیچه بنیاد فرهنگی هستن جایی که تمایز میان بزرگ و کوچک ایجاد میشه میگن ما اشرافیم شما پست و این فاصله از طریق این فاصله هست که ارزش گذاری انجام میگیره و جامعه میفهمه که خب به چه چیزهایی باید ارزش نهاد. بزرگ چیست؟ ارزنده چیست؟ این که بزرگ چیست؟ ارزنده چیست؟ از طریق فاصله گذاری و خب این فاصله گذاری هم خودشه در زندگی نشون میده، ایجاد میشه. در مورد اشراف خیلی استواره بر آنچه که هست. یعنی اشراف خودشون رو، سبک زندگیشون رو به عنوان آنچه که خوبه، آنچه که ارزنده است، آنچه که زیباست مطرح میکنن و غیر از اون رو به عنوان آنچه که بده، آنچه که پست، آنچه که خاره و خفیفه. و خب واقی هم در واقع ارزش های اشراف رو میگیرن برای خودشون به عنوان ارزش هایی که حالا میخوان به سمتش میل کنند. برای جامعه در کل دور ارزش های اشرافی ساخته میشه منطقه این تمایز, تمایز ایست استوباره بر واقعیت یعنی اشراف واقعا این کارا رو میکنن و نوع زندگیشون خودشون میسازن خودشون میگن این چیز خوب است مثلا شجاعت در جنگ مثلا این نوع رابطه آشبانه. مثلا، این نوع از هنر یا این نوع ساختمان یا پرزن رفتن به شکار یا این نوع از مناسک اینا چیزاییست که اونا میسازن عملیش میکنن تحققش می... اخلاق بردگان موقعی رخ میده که شکل دیگری از تمایز و فاصله گذاری تحقق پیدا میکنه تمایز و فاصله گذاری که از پایین صورت میگیره یعنی از یه بردگان بردگان هم میان برای اینکه که فرهنگ بسازن باز باید, باید ایجاد تمایز کنن باز باید بزرگ و کوچک خوب و بد خیر و شرف در, در, در, در, در, در اینجا رو از هم یا زیباوزش رو از هم مجزا کنن منطقه اونا این فاصله ها رو این تمایز ها رو بر اساس آنچه که نیست اجرا میکنن یعنی چون برده خودش برده است ایدئالش رو در حیعت عرباب در حیعت خدایگان میبینه تا بنابراین هویت رو نه در خودش نه در زندگی واقعی خودش بلکه در یک کس دیگه و در یک چیز دیگه جستجو میکنه یه هویت متافیزیکی دقیقاً به قول نیچه هویت نیست استوار بر واکنش و استوار بر نفرت از آنچه که هست یعنی برده از برده بودن خودش نفرت داره برده وقتی تمایز ایجاد میکنه بین نیک و بد میگه ارباب خوب است برده بد است بنابراین خودش جز بدها قرار میگیره برای اولین بار عملا فاصله گذاری ایجاد میشه مط از زاویه برعکس از زاویه مکوس زاویه بعد در حال که اشراف میگفتن ما خوب هست و بعد و خوب آن است که مای بردار میدن بله خوب هست و بعد و خوب چیزی است که ما نیستیم و می باشیم و بنابراین هویتشون متافیزیکی میشه. همه آن چیزهایی که میخواهند باشند همه یا ارزش ها و همه آن دنیایی که دور این ارزشها ها میخوااند سازند چیزی که باید بشود الان نیست. الان چیزی که الان هست درست رد شه بنابراین نفرت از زندگی به وجود میاد و علاقه به یه چیزی فرای این زندگی که حالا بقول نیچه خودش رو در حیات زندگی ما برای مرد نشون میده یا حتی در حیرت اعتقادات فرزندینی که حالا اخلاق بردگان رو نیچه اوندهتاً از طریق مسیحیت میگیره و مسیحیت رو سمبول این قضیه میدونه که اصلا این نوع تمایوت گذاری که بردگان آمدن و بعد هویتی رو که ندارن در هیئت یه چیزی که باید بشه یعنی همون قدیس یا اون جامعه ارز ملکوت یا جامعه مسیحی کامل این نوع ارزش‌گذاری رو به صورت متافیزیکی انجام دادن دیگه فاصله فاصله اجتماعی نیست فاصله فاصله متافیزیکی است در ذهن بردگان استوار بر نفرت از زندگی واقعی که خودشون هستن به همین علت اخلاقی هم که ساخته میشه اخلاق زهد اخلاق سرکوبه زندگی طبیعی و واقعی رو نفس میکنه سرکوب میکنه دنبال یک ایدئال متافیزیکیی که باید بیاد و البته خودتون این قضیه خیلی حرفه من خودم اصلا فکر نمی کنم مسیحیت صرفا در همون احساس بیزاری ریزنتمنت احساس نفرت از خود و آنچه که هست نفرت از زندگی و غرایز و زندگی واقعی خلاصه بشه در واقع خود اخلاق مسیحی داره است که حالا اون بحث که بخوام برم دیگه خیلی دور میشن که چرا حتی توصیفش از مسئله شفقت کاملا برعکسه و شفقت رو به عنوان نمونه بارز اخلاق بردگان میگیره در حالی که کاملا میشه داد که شفقت و ره در واقع کنشیست کاملا استوار بر چیزی غیر از بیزاری و ریزنتمنت، طوری کاملا مستوار بر نوعی آزادی درونی. حالا من اون بحث رو الان دیگه اینجا توش نمیرم که ولی به هر حال اخلاق وردگار، مستوار بر کینه توزی، همین ریزنتمنت و واکنش. و این دقیقا اون چیزی است که خب ما رو حالا به این مدرنیزاسیونی که یا این مدرنیته تورثی نیافته پیوند میده. چون در اینجا هم دقیقا ما با همین روبرو هستیم. نوع هویت که بر اساس آنچه نیست داره ساخته میشه. نوعی هویتی که بر حتاس واکنش ساخته میشه دیدیم که داست ایفزگی در واقع واکنش نشون داد به اون مهمور نگهبان روی پل عملا چیزی که در درون خودش بوده داشت به اون نسبت میداد و یه جوری هویت خودش, خودش رو از طریق اون میخواست لسازه و هویت خودش رو بر اساس آنچه که نداشت اونجا دیگه رسید به این که منمن کنان بگه بابا ما سماور ساختیم دیگه که نهایتا شرم و خجالت که دیگه چیی چی بگیر بگه ولی اولا دیگه چیزی دستش نمونده بود که بگه ما چی ساختیم هویت ما رو چیه و نهایتا این هویتی که بر آنچه که نیست ساخته میشه در واقع خب توی همون دور باطل حسادت خودخوری و تحقیر نفس گیر میکنه حالا اگه واقعا در اون حد آگاهانه که داستایفسکی مطرح میکنه باشه که خیلی عالیه ممکنه در حدی کنه که اصلا به این حد از آگاهی اصلا نرسه حتی چون داسترسی برحال تو اون یاد داشتا خودش عملا تشخیص میده که خودش داره این رو پروژیکت میکنه خودش داره یه هویت کاذبی رو برای خودش میسازه و واقفه در واقف تناقضاتی که درگیرش شده منطقه این رو به صلح هویت استوار بر اخلاق بردگان میتونه به شکل ایجاد بشه که کاملا فرد رو در رابطه رابطه نوع آگاه نسبت به مدرنیت و قرب گیر بیندازه که باز مثلا نمونه های شما در رابطه خودمون با امریکا به خوبی شاهدش هستیم این اگر در روابط فرهنگی دقت کنید کاملا میبینید که چگونه صبری از صبر خیلی بارزی از زندگی آمریکایی با نوع دهشتناکی از شهبت و شیفتگی طلب میشه و در این حال در یک دیسکورس سیاسی به عنوان بدترین چیز جهان و شیطان نقش میشه و این عشق نفرت حتی در خود اون دیسکورس سیاسی هم میشه درآور یعنی مسئله فقط پیوند بین فرزن حالا یه گروه های شیفتن یه گروه های نفرت دارن نیست خطی از درون همه میگذره اگه یه مقداری مثلا کانتنت آنالیز بکنن خود اون دیسکورس سیاسی رو میشه شیفتگی عجیب و غریب نسبت به همون موضوعی رو که به عنوان موضوع منفور ازش یاد میکنه از دل خود همون دیسکورس بیرون کشید و نشون داد که چه عشقی در پس این نفرت نهفته است حالا چه به گرین کارت باشه چه به هر چیز دیگه به هر حال شکل دیگه باز این قضیه میتونه نوعی در واقع گرفتاری با گذشته شخصی فرق باشه یعنی در واقع نوعی میشه گفت چیزی که من توی مقاله ای سعی کردم بحثش بدم اون مفهوم کاذبی از سنت که اینو هویت میتونه بسازه برای خودش. هویت متکی بر اخلاق بردگان، هویت متکی بر نبود مدرنیزاسیون در واقع میتونه یه یعنی نوع سنتگرایی کاذب رو ایجاد کنه. سنتگرایی که کاملاً زائیده مدرنیته است، اصلا چیزی جز یه ایدئولوژی مدرن نیست، هیچ نسبتی با سنت اصلا نداره. از بخت جهاد اصلا چیزی جز یه ابزار سیاسی نیست و با وجود این در واقع به عنوان بازگشت به اصل به عنوان نوعی بنیان هویتی ازش یاد میشه و تصور میشه که واقعا نوعی مقابله با مدرنیزم نوعی بازگشت به گذشته است، نوعی حفاظت سنت هاست در حالی که اصلا همچین چیزی نیست برعکس دقیقا نوعی ابزار سیاسی است که از آنجا که وطل به مکانیزم های قدرت فقط حافظ سنت نیست بلکه میشه گفت مهمترین عامل تخریب سنته، برای اینکه سنت رو دقیقا همین مکانیزم‌های انتزائی قدرت و ثروت دارن از بین میبرن نه مدرنیته یا فرهنگ مدرن. مدرنیته خودش می‌تونه سنت‌های خودش رو بیاره و در همه این کشورها ما دیدیم افراد میتونن به نوعی گذشته و آیندهشون رو در یک رابطه دیالکتیکی با هم دیگه حفظ کنن. معلومه به هر حال یه فرایند تراژیکه، فرآیندی است که شما درش بخشی از گذشته‌تون رو از دست می‌دید. هایی از خودتون مجبوریت نف کنید ولی خب در عوضش های هم به دست میارید و بعد هم کل این مسئله رو به هر حال آگاهانه تجربه می کنید. خودتون گول نمیزنید. اینجور نیستش که یه خوبیت کاذری بر اساس یک سنت که خودش دقیقا از دل یک نوع مدرنیته و مدرنیزاسیون نوع آباه بیرون اومده و به هیچ وجه ربطتی به گذشته و به سنت به معنی اصیل خودش نداره نیست و همونطور گفتم اون نوع صندتگرایی، به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک، وصل به تمرکز قدرت وصل به بروکراسی وصل به بازار و دقیقا همین مدرنیزاسیونی که در حیعت دولت و بازار در حیعت نهادهای های متمرکز انتظایی خارج از کنترل مردم که میان و حضورشون هم دیگه میتونه آباهانه نباشه یعنی اصلا از طریق میکانیزم مثل مثلا همین جهانی شدن حضور پیدا می که اصلا قابل جلوگیری نیست و دقیقا همین نحات ها نحات های مسلط بر مردم هستن که سنت های مردمی رو عملا از بین نیبرن و بنابراین این سنتگرای ایدئولوژیک که در خدمت در واقع همین تمرکز قدرت و تمرکز ثروت هست عملا خودش می‌تونه بدترین دشمنه سنت واقعی باشه هم جلوی آگاهی به مدرنیته و مدرنیزاسیان واقعی رو میگیره هم تطویر کاذبی از سنت ارائه میده این وسط در واقع هم گذشته از دست میره هم آینده و همه اینا در واقع خلاصه میشه در همون مفهوم عدم تعمال در نفس که من حالا به صور مختلف در این بحثم مطرح کردن ناتوانی از نگاه به گذشته گذشته مصنوعی که از گزاوی نیازهای حال اونم نیازهای حقیر سیاسی در حال ساخته میشه و اجازه نمیده که حتی گذشته نقد بشه حتی قدرت های سنت های گذشته آشکار بشه مثلا فقط نیست که جنبه های ضعف سنت یا اون که باید نقد بشه و کنار گذاشته بشه بلکه حتی دستاورد های سنت و ثمرات و میوه هم واقعا دیگه اینجا پنهان باقی میمونن در پس این و در پس این ناتوانی از تعمل در نفس و تعمل در نفس هم خب گفتم این نفس زاییده این مدرنیزاسیون که روح نمیده حالا یه جوری باید این نفس بتونه از این به همین اخلاق بردگان و این هویتی که بر اساس نبود ساخته شده فراتر بره عملا بر آنچه که هست یعنی بر حال خودش یعنی بر مدرن بودن خودش در درجه اول آگاه بشه تا اون وقت تازه بتونه سنتهاشو کشف بکنه یعنی تازه اون وقت بفهمه که بعد از فهم آینده و حال که میشه گذشته رو فهمید چون اصولاً مدرنیته ما رو میندازه توی جریان تاریخی و تاریخ هم درش اولویت همواره با حال و آینده است. شما وقتی حال و آینده نداشته باشی ما حاله بتونی گذشته داشته باشی گذشته صرفاً نقابی خواهد شد بر درک نکردن این حال و این آینده. هجابی خواهد شد برای فرار از تناقضاتی که در این حال و در این آینده در انتظار شما هست و با همین تعامل در نفس و همین مسئله نگاه به فهم آینده و حال و از طریق اون فهم گذشته است که من اون رو به عنوان فکر کنم بهترین جایی که این نکته مطرح شده اون عبارتی است از رمبو که میگه باید مطلقاً مدرن بود در آخر اواخر کتاب فتری در دوزخ این مطلقا باید مطلقا مدرن بود رفتی به اون جریان تقیزات و اینا نداره. از فرق سرسان و که پای پا نیست این مطلقا باید مدرن بود یعنی همین. یعنی باید مطلقا تن سپورد به تناقضات مدرنیته و مطلقا درگیر تراجدی مدرنیته شد و از طریق این تراجدی کشف در سویه الا چه سوی های روشن چه سوی های تاریک رو چه در گذشته چه در حال و چه در آینده این باید مطلقا مدرن بود در اینه یعنی در اینجا در جایی که می دیگه تعامل در نفس بکنیم جای چک و چونه نیست جای سنتگرایی ایدئولوژیک یا دیسکورس های ایدئولوژی ساختن یا جای هر گونه عدم صداقت نیست اینجا جایی است که باید به طور کامل واقعا ارواح اوریاد اوریانی کامل روح اوریان در واقع مقابل تمام این بادهای تند و تیز و داغ و سرد مدرنیته که از هر چهار سوی وطن، اگر این اوریانی رو همونجوری که لیر شاهلیر می‌پذیریم، بپذیریم شاید به حقیقتی برسیم. و این مطلقاً مدرن بودن یعنی دقیقا اون پذیرش اون اوریانی، یعنی که هر نوع حجاب کاذبی رو بندازید دور. اینجا دیگه جای شوخی نیست. مسئله نیست که چه چیزی بعداً پذیرفته خواهد شد؟ اینکه بعد از این اوریانی چه, انتخ... چه شکلی از زندگی انتخاب خواهد شد به قول این آیا این افرادی که در زیر این باد تند و تیز مدرنيته اوریان شدن آیا با هم یک گروه برادری خواهند ساخت یا به جان هم خواهند افتاد یا چه نوع زندگی رو انتخاب خواهند کرد اونو رو من حرفی ندارم هیچ نمیتونه از قبل تغییر کنه چه مقدار از گذشته چه مقدار از سنت به جا خواهد موند هم باز کسی نمیتونه تغییر شاید مدرن بود به معنی نیستش که از هیچ سنتی باقی نمونن بلکه به این معنی است که باید مطلقا در پذیرش سنت ها مدرن بود یعنی باید فهمید که اصلا فهم این سنت ها از دل مدرنیته برمی خیزه و تجقه‌ی این سنت ها از دل مدرنیته برمی خیزه و این سنت ها حتی قرار احیا بشن باید در ترکیب با این مدرنیتی که هست و این مدرنیتی واقعی احیا بشن و نکته مهم دقیقاً اینه که هویت خودمون رو براتراث آنچه که واقعاً هستیم و می توانیم باشیم بسازیم نه بر اساس آنچه که نیست و حضور نداره مطلقاً باید مطلقاً مدرن بود یعنی که باید مطلقاً صادق بود همین و پشکر کنیم خواهش من ای با... خیلی من خیلی شنیدم که درباره ده این وصل این واسطه به کتاب به مفهوم بیزاری یا کینه توزی بهترین کتابی هم که تو این زمینه هست. شلر داره تحت همین عنوان ماکس شلر کتابی قبلا به نام ریزنتمنت خیلی اونجا قشنگ خلاصه کرده و بعد نقد کرده البته اون موقع که این نوشته شلر مسیحی بود بعدن برید از مسیحیت ولی اونجا در دفاع از مسیحیت نوشته ولی مفهوم نیشا رو قبول داره یعنی تینه توزی و ریزنتمنت رو قشنگ قبول داره تحلیل نکردم معرفی میکنه بس میده میگه ولی اشتباه کرد که فکر کرد مسیحیت نمونه چین توزی است خیلی ممنون و البته تو خود آثار نیشام خب چون پراکنده است دیگه در همه جا هست دیگه تو چنین گفت هست دو دانش شاد هست دو جه مختلف که تا باش کارهای خصوصا عباخر عمرش ما نموایت بوده میخویه موفر هم داشتیم تو دنیا بسه جا کنم یا کنه اتان یه پروجکشن پروژکشن اون ورتم پوله مثلا این فوتنایو است اوناست دیگه اینا همش اینا شاریدین فوندن یه بوری تو دیچوچی بله والا حالا کره که خب با درش بحث است حالا چون یعنی در موقعی که ما دیگه وارد این فرایند جهانی شدن و اینا شدیم یه مقداری اصلا قضیه دیگه فرق کرده چون یعنی اولا میشه گفت رشد کره خودش مقتنی جزئی است از رشد کل نظام جهانی سرمایه‌داری که حالا کره رو در این مقطع انتخاب کرده برای این کار ولی در مورد ژاپن باید حق با شماست ژاپن یه نمونه کاملا استثناییه منم بهش اشاره نکردم برای اینکه خب یه مقداری از بحث ما رو دور میکرد منتها اتفاقا استثنایی بودن ژاپن رو باز شما میبینید اون نکاتی که ژاپن رو سوا میکنه از بقیه کشورهای غیر اروپایی دقیقا نکاتی است که بیانگر شباهت ژاپن با اروپا فرضاً وجود اشرافیت شما در هیچ یک از های آسیایی یا آفریقا نوعی اشرافیت کاملاً برنشسته ریشه رو پیدا نمی‌کنید. ثروت هست، ولی اشرافیتی که در طول تاریخ واقعاً حفظ شده باشه و بدون ارزش‌ها رو انتقال بده و فرهنگ ساخته باشه. خصوصاً اشرافیت مسلح، یعنی اون که تو ژاپن هستن، کاملاً شبیه های اروپایی هستن. شکری اشرافیت مسلح و همه ارزش هایی که دور این ساخته میشه حالا شرافت و حیثیت و غرور و افتخار و همه همونیش و, و این اشرافیت باز ریشه داره در اقتصادشون یعنی باز مثلا اون من خودم مثلا همین کتاب تاریخ دوران میجی و اینا رو میخوندم واقعا شکلی از فیودالیته در جاپن وجود داشته فیودالیته دقیقا به منعه غربیش باست نه صرف کشاب ازیه ما قبل سرمایی دارید نه یعنی مالکیت خصوصی نیمه مشروط بر زمین دقیقا به همون شکلی که در غرب بوده و در ایران نبوده در چین نبوده در هند نبوده شما در ایران تا زمان رضا های تا ثبت اسناد و میشه تا قبل از اون هیچ کس مالک نبوده یعنی شاه هر زمان میخواستن هر چیزی رو مصادره میکرده هیچ چیزی به نام اشرافیتی در مقابل حکومت وجود نداشته بنابراین وجود برخی نهادهای فئودالی همین که اونجا اون یا قدوار هایی که توی ژاپن تشکیل شدن و عملاً امپراتور رو هم چد بازیچه دستشون وجود اشرافیت مسلح و یه سری موارد فرهنگی دیگه که حالا دقیق الان یادم نمیاد ولی تو اون کتاب میجی در واقع روشون صحبت شده بود نشون دهنده اینه که ژاپن واقعاً یه نمونه استثنائیه تو کشورهای غیر اروپایی و داشته برخی زمینه های اون جهش اولیه به سمت مدرنیزون در اونجا که این هم استوار بوده بعد دقیقا وضعیت درونیش حالا همان نظر فرهنگش هم نظر حالا تو این بالا کار شده مثلا بعضاب مقایسه کردن اون شکلی از بودایی که مثلا در ژاپن بوده با اخلاق پروتستانی مثلا باز از زاویه کارهای کارای ویبر به خواندن جلو ببینن باز تو اون زمینم به نظر میاد مشابهت هایی هست یعنی نوعی با علاق به کار و کوشهش رو. حتی ثروت اندوزی یا پیشرفت و اینا همراه با عدم مصرف و پس تو فرهنگ ژاپنی هم باز به چشم می خیلی المان های مشترک اتفاقا با اروپا داره و همه علمان هم علطنم یگان استثنایی است که تونسته یتنه با من این رو انجام بده. باشنا. شما <تصفيق> این دیگه بود بود من گفتم باید مثلا مدرن بود یعنی باید مطلقا صادق بود یعنی اصلا باید مطلقا پذیرفت که ما مدرن هستیم فراری از این واقعیت نمیشه که هویت ما و تاریخ ما در, در درون مدرنیت است بنابراین پذیرش مدرنییت یعنی این پذیرش تناقضات مدرنیته نه دست بندی کردن و تیکه های خوبش رو فرزنا برداشتن. و دقیقا این پذیرش تناقضاته که سخته، بلوغ دقیقا یعنی این بلوغ به این معنی که شما یه چیز عجیبی می رسید. لوغ برایدی که شما زخم درونی خودتون های درونی خودتون رو آگاه میشید بهش حفظش می کنید به یه نوعی به جای که اون تنشا و اون تناقضات ویرانگر باشن، اونا در یه راستای کماویش به حال حالا میشه گفت مثبت هدایت می‌کنه. بنابر این مطلقاً باید مدرن بود یعنی اینکه من محتوا تعیین نکردم. اون تغییرات محتوا تعیین می‌کنه یعنی مثلا از فرق سر تا نو که پا خوب میشه یعنی یه نو مثلا مثلا لباس پوشیدن باید مثلا مدرن بشه. من این اصلا چیزی نمیگم. مطلقاً باید مدرن بود یعنی اینکه اتفاقاً باید مطلقاً باز بود به سمت این هرچی پرسهشی که خب مثلا چی بپوشی، بپوشیم یا نپوشیم. نوخرا بریم مثلا چه لباسی رو گوشیم اگه میخوایم لباسمون از سنت بگیریم یا نگیریم چیز همه اینا خیلی باز باز مطرح بشه یعنی در اینکه چه رو کنیم یا چه نکنیم دیگه خودگور زدنی نباید باشیم یعنی اگر شما فرزند این نوع خاصی از حالا یه مقدار همین خیلی کنکرت بشیم نوع خاصی از پوشش رو مطرح میکنی و میپذیری بعد دیگه نباید نقطه کت درستن مقابل اون در قالب ویدیو تو دست همه جماعتت باشه بعد هم در شده نیاری. یعنی از یه برد بگی همه باید از اینجا تا پایینشون تو گونی باشه مثل طالبان بعد از اون برم همه بتونن هر فیلمی که تمام اوریانه رو ببینن بعد این دوتا انگار نه انگار که کنار همه انگار نه انگار که اون یکی هست اینه در رفتن یعنی باید صادق باشه اقلا بپذیر شخوا اقلا حضور اون یکی رو بپذیرین یعنی لاقل این نگاه میکنین رو بپذیرین نه؟ یعنی افراد لاقل صداقت داشته باشن بگن که ما بیرون میایم گونی سر اون میکنیم ولی تو که میریم اون چیزها رو نگاه میکن این حداقل مدرن بودن اینه خواهشون مثلا یه وقتی منیکشونها رنگ سبز کاری با. این نه بابیه که باز هم داره. با. حالا تو خانه گوش نمیشوم با، چون که شاید بدونم مادر خانی آمده. با. اتشایه هم. اتشایه هم. با. حالا اینه، تاکو بودن ماند چه عاشق این کامویی دست یعنی این میتونه آیا آمل مهمی باشه این تحقیقاتاشون بیشتر تو کجاهات که باید این شده که مثلا نتونه بود راکو خب یقینا <تصفح> آمل مهمیه منطقا خب در مورد ما به یه شکلی میشه گفتش که مسئله خب طولانی‌تر از واقعا حالا اون دوران فقط تاریخ اسلامیه یعنی یه نوعی این استبداد 2500 ساله واقعا در کل باید با هم دیده بشه یعنی فرضاً چیزایی که من ذکر کردم مثلا اشرافیات له شدن همه افراد اون چیزی که هگل میگه که همه بردن یکی آزاده خب تاریخ ما در طول 3000 سال همش همین بوده یعنی قبل از اسلام هم همین بوده یعنی یه نفر اون بالا بوده و همه له به معنای مطلقه کلمه شا او یا از خود روسیه و فقط ناایش مثبت طرق کردی؟ خب بله مثبت رد میکنم به اونجا وجود داره و در مورد ایران اصلا اشرافیت وجود نداشته آنچه که بوده حکومت‌هایی حکومتهایی هم که در هر دوره غارت کردند تا بعد دو مرتبه از فرت تجمل گندیدن یه دقاارت کرد دیگه اومدن اینا رو انداخن دو مرتبه دور جدید غارت شروع شده که دو دور بسته از تمرکز آشوب و با باز تمرکز دوباره و این چیزیه که به قبل از اسلام هم برمیگرده یعنی مثله من میدونم میشه نشون داد هایی از این که واقعا حالا فرزن در طول اون دوسقرن اولیهی که تمدن اسلامی شکل گرفت در دوره اومهوی و عباسی واقعا چه علمان هایی که اتبا برخیش هم اتباقا در تاریخ ایران گرفته شده چه اناسوری رو گرفتند از ایران یا شاید مثلا بیزانس و از هر جا و عملا روایت خاصی از اسلام رو مستقر کردن همون روایت فقهی خلیفگی که در اون روایت بله دقیقا جایی برای تعمال در نفس وجود نداره و اون روایت و اون نوع فرهنگ و اون نوع دیدی که از دل این روایت بیرون اومد مسلمان در اینکه که ما الان با مدرنیته گرفتاری داریم ما درخداخیل بوده و خیلی هم داخل بوده یعنی شکی نیست که یکی از مهمترین عوامل گرفتاری ما با مدرنیته این روایت است که از اسلام از دوره اموی و عباسی شکل گرفته و تا امروز هم وجود داره منتهی ها میگم خب ریشه هاش به قبل از اسلام هم میرسه الان با عوامل فایده تاریخی حضارستانی که حضار رو بخونید یعنی هیچ فرده‌ای از این تاریخ کوهانی که داره ازش یاد میشه حالا من نریدم اولا این هیچ فرده‌ای از این نمیشه شما جای شما پیدا کنید مثلا ما یه زمانی همچه اسنادو داشتیم که اگر مثلا اون تکیه بکنیم این میتونه مثلا کمک کنه حالا ما هست در سطح وقای نگاری هم تاریخ خودمون رو زیاد خوب نساختیم یعنی تاریخ این ما این چه ما از میدونم که چتیبه این منم شاه شاهان داریوش دادم اینا رو سر بریدن اینا را نمیدونم چتشون رو, رو سوراخ کردم اونها را چرداق زدم حتی ما نمیدونیم قربانیان این وسط چی کی بودن چی این وسط در بین رفتن اصلا چه اتفاقی افتاده و یه سری حالا بعدم تهاجمات خارجی که دیگه مغول و نمیدونم اینا اصلا من حتی در حد ساختن یه تاریخ روایی هم اینجا نمیدونم این منوز کاری صورت نگرفته اونچنان و این دست و پا زدن اینکه حالا افرادی خا... قبل از اسلام دنبال یه چیزایی می‌گردن، به نظر من, من همین مدرنیته تخیلی است که بر حالا نمی‌دونم چه امشاسپندان و نمی‌دونم بگردید تو من زمان ماقبل اشکانیان حالا در دوره اشک هفته مثلا سه روزو چ... یه هفته مثلا مردمش علاق نزدن، حالا اینو بگیریم گنده کنیم بگیم مثلا ما اونجا دموکراسی داشتیم. اینه قضیه این که اینکه... چیز مال تخت جمشیده که میگن شفات شانترال داشته بی سیم داشته بنامی هر این اینا واقعا خیال پروریه من در تاریخ گذشته خودمون جز سیاهی چیزی نمیبینم در نقشه که فکر نمانم بهش ما یه فند داریم از شون یه کتیم آسیاهی یه آسار باقی میده می کنیم و گوشه چیزی رو گذشته همون یعنی که شما فرودی اگر ما می تونیم کتبیه کوروشی دید از کُرد باشرد از اونجا رسید که خط میخی بوده دانشمندا و مستشرقین که ده درجه فرامین ما را نگاشتن داشتن، اونم این شما که از زبان زبانی داریوش که خود روزوجی ترجمه کرده گفت نگاه بکنید و ببینید که چگونه فوق و قوند گابریالتوران دی، تمام اثر کوروش که در اصل حالا برای تو شده در دستور ایلغاء و کارهایی که از ما در زمان حقامنشیان مجالس مختلفی مختلف بشین چیزهای مختلف بوده همین تحت جمعیشی که شما میدید تماماً اینه بودند حقوقها چگونه بوده و چگونه در اونجا حقوقهای کار و کارگر رایت میشده و نظایره میکنیم ها رو باید ریزن باشن یعنیم کتاب بود بشر در ایران باستان که مثلا دو جایی روی فقط در اساس و هم که اساس موتونی پیز را هم که ما که زامتوش با اوکاپورا مزدو در حال دیالوگ ایراد می‌گیره دائم خودش وارد یک مخالمه و ماخاوره میشه یعنی هستن این فرخنگی یک‌سویه و پاسرنالیسم حتی در اونطوله دیه اون موقع به چشم نمی‌خواد خب این دموکراسی بحث سر فاکتاس نمیدونم من نظر شما رو به اینش قبول ندارم به نظرم میاد خیلی آلا ساختن خود کتاب آخر آقای آدمیتم همین دغدغه رو داره که همه چی از بین و نحره ای مثلا شروع شد من واقعا اصلا کاری ندارم از کجا شروع شد مثلا حالا ریشه های یه چیزی در یه جایی بوده بوده که بوده خود اون چیز اونجا عبد نشده این درست مثلا این قضیه مدرنیته است من نمیبینم اینکه اگه اینجوری بخوام بگیریم هیچ تمدنی تو دنیا نیست که نتونه بگه ما دموکرات بودیم آزاد کاور نمیدونم هرکسی رو بگردید بالاخره یه دو تا شورای یه نمیدونم به قول شما دیالوگ و نمیدونم اهورایی یه چیزی پیدا میکنن بعدم میگن اصلا آقا یونان چیه ما قبلش داشتیم دموکراسی مال ما من اینارو قولا قبول ندارم به نظرم تازه حالا این حرفام که مستشرقین غربی زدن که حالا تازه بوده ما باز نرفتیم پیدا کنید من میگم تعمال در نفس به اون شکلی که در قالب فلسفه بزنه بیرون در قالب ادبیات بزنه بیرون ما نداشتیم این چیزیش که شما در یونان میبینید در روم میبینید در هیچ جای دیگه هم این به نظر من دیگه حالا میتونیم سر فاکتایش صحبت بکنیم ولی آخرتر باز میرسیم به تفسیر فاکتا آخرتر باز میرسیم به این که من فرزن اون شعرهایی که شما میگید اصلا به عنوان شکلی از دموکراسی بفضیرم یا نه ازای شما هم درشت فرزن کشم بینیدیم که که تو قرآن که روز مرزایی اصلا یا روزایی رو به مراجع بکنیم یا هنیشه اصلا بید تو هری بحث خیلی کوچی نگاه حسی نگاه هم کوچه. اما نه تنظیم این هم رابطه با. اگر هست این فلسفه کجاست؟ است؟ من توضیح میدونم که چندتا مات نیه که, که اونهام بر میگذنن به ریشه والای دینی از از و سال تاریخ چندتا مات مونده؟ همهش سودونده؟ عرب سودونده؟ خب پس چیه اصلا چند تا مثل مونده شما یه مثل فلسفی به من نشون بدیم خب هایی خب اصلا که قابل خب که اصلا کتیبه ها چی میگن کجا بحث فلسفی کردن خب بله مالو در بیارم به من نشون بده منم قبول بکنم بزرمه خواهشون کنم خواهشون بله اگر هم موله پرشت باستم اینکه از اون موانی رو باشد دویدم راستان رو به روزو سویزی شکل پسپانه ما هم در موانی که همشه که ما همشه هست من نمیگم میگم بیگم دیست هست شبه هم باشه. اما بیشتر هست باست در این هم بودی که این همشه روش روش رو خورد و نمیشه بهش و نمی من گفتم که حتی بخشای مثبت سنت شاید کشف نشده دقیقا برای اینکه قراعتی که ازش داده شده سویه های مصبتش هم سرکوب کردن به قول شما ببینید اتفاقا نفسه ای که گفتی خیلی مهمه برمیگرد به همین باید مطلقا مدرن بود ببینید من مثل متخصص تاریخ ایران نیستم ولی اگر یهو یه رو برمیگردم اینجور جدی 2500 سال تاریخ رو میبرم زیر سوال بدون این کسیم واقعا پخی تو این زمینه باشم یا اطلاعی داشته باشم دقیقا به خاطر همین عدم صداقته چون من حس میکنم ریشتش همین در رفتنه یعنی یه جوری میخواد بالاخره یه از یه گوشه ای پتیک پارچه ای بکنه و این برهنگی رو بپوشونه همین برهن شدن اوریان شدن در برابر خودش که قایم کنه خودشون یه جوری قایم بکنه یه جوری نبینه حالا با هر ای از هر جا شده از نمیدونم سنگ نوشته و داریوش و این و اون و اسلام و قبل از اسلام بالاخره یه چیزی ما پیدا کنیم که واش از روبرو شدن با در و داغونی و فلاکت و تناقضات خودمون فرار کنیم حالا ممکنه هزار تا چیز خوب هم هست اون تو ممکنه مثلا ده ها نمیدونم بهتر از سنگ نوشته بشه پیدا کرد. مردم نباید با این نیت من اگه این رو زیر سوال میبرم به خاطر اینکه حس می کنم پشت سر این دقیقاً فرار از مدرنیت است پشت سر همه اینا علی رغم جواهر علمی و نمیدونم هر که زده میشه اگه این حالت نباشه این اگه واقعا اون اوریانی بیاد اون صداقت بیاد بعدش اصلا شاید منم بفهمین آقا بله اصلا شاید خیلی از جای تاریخ ایران عالی باشه اصلا بر منم جذاب باشه بخونم بفهمم قبول کنم این واکنش تونده منم هم به خاطر نیت پشت این قضیه هست. نه اینکه که من حالا مثلا تاریخ ایران کف دست همه میتونم مثلا همش رو بکنم نه ولی احساس هم اینه که این بوری زدن به گذشته ایدئولوژیکه و در همه موارد همین فرار از مدرن بودن خواهد اون آقا بس که قبل شما ببخش. بخانم، در این مسئله داریم در این که خصوصیت جه و امکان یه خود از طرف رابطی باشه. هر که داخل اون وظیفه و خدماتی یعنی عادی که رو باشه. حسابه از امتصال، هل سهلی، سهلی، سهلی، تنگیم تاریخ خیلی لفت موساقی با فرصه تورکا بله منم دیدم بل هشت کل تاریخ بسکانید یه جا ترجمه از این ترخب این معلوم میشه و حاصل هست. بله بل از این سکمت اون که اونها شاید از انگیزه یک سوران از مودنیت هم یه داشته باشن بله از این اون که کدشون رو نسبت بله بله بله بله بله بله بله بله بله عادت از اون واقعه خاصی بود دروس حدیثی خاصی بود و بنابراین طریقه های فکری یونان مثلا دم نمی داره همه غیرتون ده همه پذیرفتن که یونان فلسفه نداشته با. یا اسلام بله فلسفه نداشتند بله ولی که پذیرفتن بعد از اون طرف ما میبینیم که خب از علایم حسن دانش در یکی در سوریه از تایی تازه شده که بیروس بزن که در هر شدیدون همین که در نماشگاه شما در آثار از شیعه هم مجا به امایت داشته بشین همین اینا در سه در هم میده به سر منزده چهر شعید شما باشه و این که تو این شریف خیلی خوب عمل این با تصمیماتی که الان <سؤال> تا این تا این تا هم تا این تا این تا این که این تا من همیشه هر از دید نظری نه بریم توی کاشته هر باعثشونه. ولی باعث که مسیح نرسید و چیز دار کنی. باشه. باشه. شدن بود از باشه. باشه. باشه. باشه. ترجمه شده بود ها. خیلی نظرم بسید که من ترجمه نکردم همش چیزی رو یه شاید یه مقاله دیگه در مورد بله راجب سکولاریسم و آره هنده تو که خیلی در که جان است، و من عالم حراصی که در این زرکی دریه مولد فر بله من خودم هم خیلی داشته همین که هم حرف بود من خودم این مکالمات افلاتون میخوندم و میشه به سقرات خیلی حسادت میکردم یه آدم بجینه همین جوش شنونده مفت گوش موف آخرش هم تازه زیر همه چی بزنه ولی نه حرف شما واقعا درست یعنی یکی از این حالت های این مدرنیتی ناغا همین خودشیفتگیه و این حالت خودمرکزبینی و یه مقدار بلوغ هم یعنی این که آدم بتونه از چشم دیگران به خودش نگاه کنه و اصلا یه موقع بفهمی که برای دیگران اصلا ما وجود نداریم خیلی زیاد یعنی مثلا شما واقعا اخبار مثلا برید خارج از ایران میبینید که اصلا اصن ایران اصلا نیست ممکن 5 هفته تو اخبار هستن اسمی ازش اش نیاد اصلا یه مقداری تکون بخورید اح... خیلی از حساب بزنن که رفتن این تجربه رو برای من گفتن که اصن شوکه شدن گفتن خب معلومه بله فکر نکنون همه جای دنیا نشستن صبح تا شب راجه اینجا واسه من تا صحبت میکنن خب معلومه اونم دغدغه خودشو داره و بعد اصن یه نمره آدم هم از چشم دیگران به خودش نگاه کنه و بعد این واقعا نسبت به دیگران کنجکاو بشه اینقدر دیگران را از طریق مسائل خودش نبینه دیگران هم بر خودشون دنیاهایی دارن که مستقل از دنیای ما است و حالا خالی نداریم واجبشون قضاوت نمیخوایم بکنیم ولی هستن و یک خب آدم میتونه نسبت به اونا کنجکاق بشه نباید همش بخواییم اونا ما رو بشناسن مثل مثلا تینیجر های 19 ساله که هی به همه میگن کسی من رو درک نمیکنه احتاظات من رو درک نمیکنیم این علامت عدم بلوغ با من بلوغ موقعی که طرف دیگه پسر و دختر 12 ساله از این حالت که هی من رو درک نمیکنن و خوندن فروغ و فراخزاد بیاد بیرون ملت ما هم باید از این بیاد بیرون که چرا دنیا ما رو درک نمیکنه یه مقداری قضیه نیست شما برید دیگران رو یکمی درک در مورد این فصلیه سیستم و نه نه در مورد این فصلیه سیستم کاملا سازمان و نه در مورد و نه و نه و و در و و و و و و هاستا بگیرم که ها دوست بگم که موشخصم این دوسته یه مطلب مدر با این از ها موشخصتش با این دو چیز ها کدوم رو هم با رو هم بعد اون که که فرضیه این دسته اشاره که در مورد که بعد از اون فکر باز حساب بحث مدل تو به به رو می‌دونیم که در این به اصطلاح ارزش‌ها رو به حساب حساب می‌کنید. باشه. این رو ما چن می‌کنه. از این مرحله وارد قصه می‌شیم من. باشه. البته بسید که افوچه شما اصلا همین مدخب این همین منظر یا مدخب و اکمیتی بارد قسم شدن جایی داره برای این قسم مدرد در مقابلی مدرد و همونی که از موضوع که اگر باشد آن وقتی داغلی که فرمزیدن مورد روسیه و اینها دمیشه این باید که از دقایت نزید که از راقای مادر مگرد بارد باشد از وارد همیشی بیتر مدرد باشد جسیمان ها حالا خب شما خیلی چندی سهار شد حالا چشم من سعی کنم تا اونجایی که ذهنم اجازه میده ولی بگید این جمله اول من گفتم مال رنبوه آخر یک کتابیست به نام فتلی در دوزخ یعنی دقیقا عنوان کتابم گویاست باید مطلقم مدرن بود است در پایان واقعا فتلی در دوزخ یعنی رنبوه هم راون مدرنیته پاریس رو به عنوان دوزخ تجربه کرده و در اون کتاب که خیلی شبیه چنین گفته ارتوشت نیچه است رو بازگو کرده و بنابراین اونجا منظورش هم یعنی همین یعنی بذارید یعنی همین فصلی در دوزخ تحمل دوزخ آشنایی با دوزخ تجربه آگاهانه دوزخ این یعنی همون پذیرش تناقضات اگر این تناقضات و درگیری ها ای این خصلت مدرنیته اینکه به هر حال درگیر شدن با ارزش‌ها و آرزوها و امیالی است که ما رو چکه پاره می‌کنن ما رو به جهات جهات می می‌کشن در ما ایجاد تنش می‌کنن مجبور می‌کنن بخشهایی از خودمون رو خودمون نابود کنیم ما رو درگیر یه فعالیت تخریبی و نوسازی دائمی می‌کنن که در این فعالیت نه فقط سنت‌های گذشته بلکه بخشی از جنبه‌های سنتی خود مدرنیته بخشی از دستاوردهای خوب خود مدرنیته هم از بین میره و درگیر شدن با این جریان و مقابله با این که این تکه پاره شدن، این تغییر، این فرآیند افتادن در دل تاریخ چیزی نباشه که بر ما تحمیل بشه، صرفاً یک مکانیزمی نباشه که قدرتها یا مکانیزم بازار یا نیروهایی از بالا کلا سرنوشت ما رو تعیین کنن و همینجور ما رو رباین ببرن، گذاشتمون رو رباین ببرن، تکه پارهمون بکنن و ما هم مثل عروسک در دست اینها همون فرزند یک مصرف کننده منفعل بشیم. درگیر شدن با این ها که میتونه به فرد احساس بلوغ بده و عملا مهار این مدرنیته رو در دست بگیره. وقتی مهار رو در دست گیره، اون بحث پیش میاد که حالا چیشو قبول کنیم، چیشو قبول نکنیم. یعنی این بحثه اینکه آیا میشه قبول کرد، انتخاب کرد یا باید در پذیرو به نظر من بحث بی ربطی است، که اول باید فهمید که ما کجا هستیم، کجا وایسادیم، اول باید اینکه ما تو دوزخ هستیم، ما پذیرفتیم. زخ ورنه‌ای داره دوزخ حالا من یه مقدار میگم ولی اینکه با تو, تو تجربه اروپا اتفاقا اونجا اینجا جایی هست که واقعا دین خیلی به شکلی عجیبی وارد قضیه میشه یعنی اونجا به این سادگی نیست وقتی نیچه میگه مثلا خدا است، اصلا خیلی خوب خوشحال نیست از این قضیه این یه نمیدونم ماتریالیست قرن 18می نیست که بیاد بگه مثلا خدا وجود نداره این این رو به عنوان یه زخم داره میگه این رو به عنوان یه درد داره میگه یعنی اتفاقا تجربه مدرنیته به عنوان حبوط اکثر ازتلکترول های غربی مدرنی تر عنوان هوبوچ به عنوان سرازی شدن تو دوزخ تجربه کردم و اتفاقا بهترین نقد مدرنی هم از درون همین نگاه ها بیرون اومده از غذا اینجا ما فکر می‌کنیم، کنیمیم بهشتیم و حالا یه چیزایی هم سلکت می‌کنیم. کنیمیم چشی رو تلک می‌کنیم. از اول بابت بپذیریم که اصلا تو دوزخیم حالا که این دوزخ ببینیم که اصلا چهکار باید کرد که چه،, چه سایه چمبرگی از امید رستکاری میشه در این دوزخ پیدا این اینه که بلوغ میپذیره. بالا تکنولوژی و موبایل و اینا که من گفتم شیفتگی به زندگی آمریکایی که هیچ ملتی من فکر نکن بنزین ما داشته باشه. اینقدر داد معنویات و فلان زده میشه در عمل ماتریالیستی ترین نوع رفتار در سطح جهان رو ما داریم میبینیم. این نوع شیفتگی با مادیات من فکر نکنم مثلا در هیچ جای اروپا هم پیدا بشه. برای این سلکت کردنم یه حالاته که مثلا سوپرمارکته ما هم که خوب خیلی آدمای خوبی هستیم پولمونم که سنت هم ارز عرضه مثلا اون طول نفت که به اون به عرض رسیده حالا سنت اونم به اون به عرض رسیده پر از معنویت و خرد و فلسفه و همه چی بقوله ایشون هست حالا ما میریم در سوپرمارکت و قرب خیلی مثلا درود برحق داستایفسکی مثلا میگه آقا این هلیکوبتر چرا مثلا به بنده بفروش بعد هم دو هم مثلا میدیم چون خودمونم احساس خیلی برتری میکنیم و مرکز جهانی و معنویت در دست ماست و باقی همه گم شدن و رفتنیم این اصلا علامت پرد بودنه اگه کسی این پیشفردار نداشته باشه, پیش باشه؟ اون موقع مطلقا مدرنه یعنی رفته که تو دوزخه و بنابراین من تعیین نمی کنم چی رو سیلکت کنه مسلمی که سیلکت میکنه یعنی خب قربیان دارن سیلکت میکنن. اگه فکر این شما مثلا ریو دو جانی رو اینه مثلا توکیوه یا توکیو اینه لندنه اینه معلوم همه سیلکت میکنن حالا این بحث جهانی شدن و تحمیل یه چیز اونم اون یه بحث نیست بحث در مقابل اونم یه دوائی سازن تو سیاتل یه دوائی میشه درگیر این مبارزن که چقدرشو خودمون کنیم. آزادی هایی که میخوان میگن آقا کلیسا حق نداره به من بگه سخت جنین نکن اون یکی میگه نه داره خب این دعواست اونجا خب برای هر هم یه قیمتی باید پرداخته بشه یعنی این قضیه اینجوری توریستی نیست که ما میریم تو سوپرمارکت شکلات میخریم میایم بیرون اگه قبول کنه سخت جنینو یه ور دیگه یه از روحش در واقع از دست داده یعنی برای کاتولیکه واقعا سخته این قضیه شوخی نداره برای اونم سخته اون یکی سخت عدم قبول فرزند آزادی سخت جنینه و برای هر دو تا مسئله جدیه حالا یه جا ممکنه این رو سلکت کنن یه جا اون رو سلکت کنن ولی به هر حال در هر دو مورد یه جوری آگاهانه این کارو میکنن و هم که هر ورش انتخاب کنی خب یه ورش یه جای کار به هر حال ممکنه بلنگه یه تضاد دیگه ای ایقدر هم همه چیزو به بیرون حواله نمیذارن همه گرفتاری ها رو یه بیرونی نمیذارن میدونم که انتخاب هاشون قیمتی داره باید مطلقاً مدرن بود یعنی در این حالا قسمت دیگه ای هم که فرمودید من درمونم در مورد اما اون هم با تخلیف هم خب یه جوری واقعا جوزی از این هست یعنی میشه از اون راه وارد شد یعنی خب یه خب یه مقدار به نظر من چیز فرمالیستیه یعنی مدرمیتر رو نمیشه در این خلاصه کرد که حالا آدم ها شدن یا انسان محور شده قبلا خدا میور بود حالا انسان محور شده و حالا همه دنبال حققا قبلا همه دنبال تکلیف بودن. یه همچین دیالکتیکی رو شما و قبل از مدر میتم میتونید تو مسیحیت ببینید توی مدر میتمم این مسئله هست همین الان بحثی که کردیم خب تاپ میاد میگه تکلیف. چیزی هم نداره شاید هم دلیل دیگه هم نمیفر از این دلیل بهداشتی و اوندمیه حرفان رو گفت آقا به من گفتن، حق نداریم من میگم این جنین انسان روح داره اگه خراب بزنیش آدم کشی تموم شد این را هم پذیرفته و قیمتی هم حاضره برای این بپردازه و خب این در واقع میگم انتخاب آگاهانشه بر اساس تکلیف میگه تکلیف به این تنها راستان که دنبال مول حقن حالا اون جنبه حق تو مدرنیته بله خیلی بارزتر شده خیلی بیشتر رو اومده برای اینکه فردیتposterش پیدا کرده چه مثلا اون نهادهایی که فرضاً تکلیف میکردن سوست شدن تکستر دینی به وجود اومده نه حقوق بشر همه اینا اون جنبه حق رو خیلی برجسته‌تر کرده متأهل چیزی نیست که بشه فرضاً مدرنیته تر از این فرمول بیان کرد که آقا حق یا تکلیف و بعدم حالا مثلا حق یا موقع بودن مثلا بهتره این میشه مدرد میشه نه این یکی از سویه هاست یکی از جنبه هاست یه نظرم واقعا باید بر اساس شرایط خاص و انضمامی سنجید که فرضاً ادا چی تکلیف محسوب میشه چی حق محسوب میشه چیز نهاییش اینه که در هر دو مورد باز واقعا در یک گفتگوی آزاد یا در یک انتخاب آزاد و با قبول اینکه به هر حال قیمتی داره هر کدوم از این انتخاب ها قبول درد و تناقضی که از درون هر کدوم از این انتخاب‌ها میاد میزنه بیرون حالا چه تکلیف باشه چه حق ولی خب شاید تو مملکت ما به خاطر اینکه این جنبه تکلیف خیلی توی این دوران اخیر خصوصا بارز شده خب این یکی از مجراهای خوبه شروع بحث فرضاً فرضیات باشه که آقا فردیت یعنی چی؟ چیجوری فردیت شکل میگیره؟ همین مدرنیزاسیون روح یعنی چی؟ چه نیازهایی در فرد ایجاد میکنه؟ چگونه این نیازها باید به اصطلاح تحقق پیدا بکنن؟ این بحث رو شاید در ایران بشه از طریق همین مجرای حق و تکلیف تا یه حدی پیش برمونتا نه خیلی بازم دو اکیب که انگار اینور فقط حق اونورم فقط تکلیف. اون بله من بیشتر این برای قضیه رو میبینم بله یعنی لاغل گوهر فردیت مدرن حالا میشه گفت تو خود مدرنیته یا تو ساختارهای مدرنیته حرکت به سمتر یعنی بازار و دولت و بروکراسی و اینا حرکت میکنن که این تناقضات رو به یه شکلی سرکوب بکنن و هی برن در سطوب بالاتر تمرکز و به صورت خودکار عمل کردن ولی به هر حال سنت هایی که مدرنیته ایجاد کرده همون روح فردی که ایجاد کرده داره در مقابل این جریان مدرنیزاسیون از بالا مقاومت میکنه و خب اون چیزی در مدرنیته که ارزشمنده در واقع همین هاست این فردیت و این آگاهی حالا میشه گفت تراژیکی که به وجود میاره این همین مطلقاً مدرن بودن این اوریانی این صداقت و این تجربه آگاهانه زخم ها خوب، در این پستی که که ما چه شما بدانید، ما میلیه، شنیده اید یا اینو تاکش نیست، شدی رو استفاده مدل آهن و مسکو از چشم دیگران ترجمه کرده اند چه چیزی از توی این مجموعه داریم، با این وجود برای تاثیر خیلی دوستانه میتونه تحلیل این شده این بود که آیده دنیا به سخت این وضعیت که اینو نشناویزم وشه گالب بشه خودش رو تنمید بکنه چیزی که من را چیزی؟ خب این دیگه خیلی این بحث شرایط الان که در واقع یه جور خودش یکی از همین تناقضات مدرنیسه هست این یه حالتی به وجود اومده که ما یه حرکت به سمت وحدت داریم یه حرکت به سمت کسرت و این دوتا در واقع میشه گفت یه جاهایی دروی یه سکه میشن یعنی فردن شما ایجاد وحدت برای اقلیت‌های قومی در درون مثلا کشورهای اروپای شرقی عملا اون اقلیت‌ها رو متحد میکنه با هم در شرایطی الان که فردن آزادی ایجاد شده و میتونن یه همچین اتقادی رو بخوان فردن توی یوگوسلاوی مثل تو کوزوو اما وحدتی که اینا میخوان ایجاد بکنن عملا به معنی ایجاد تکثر در درون خود و اون کشوره یعنی وقتی فرض کن اینا خود مختاری بگیرن خب خود یوگوسلاوی متکثر شده دیگه یعنی این تکثر و وحدت به یه شکل دیالکتیکی با هم دیگهن الان تو این وضعیتی که الان دنیا داره پیش میره هر حرکتی به سمت وحدت بیشتر میتونه در پس خودش نوعی تکثر بیشتر به بار بیاره یا هر حرکتی به سمت تکثر عملا پشتش نوعی وحدت پنهانی خوابیده باشه این دیگه یه مقدار بحثه اینوی میطلبه که واقعا همین درارین که این جهانی شدن چه مقدارش برمی به ایجاد همین یه ساختار مصرفی واحد یعنی همین بازار جهانی و باز... یعنی در واقع جهانی شدن بازار و بازاری شدن جهان و چه مقدارش برمی به این تکثور مدرنیستی که حالا از نظر قومیت ها و مذهب و جنسیت و نمیدونم گروه های مختلفی که نظر فرهنگی شیوه های مختلف زندگی رو دنبال میکنن که خب این دیگه حالای بحث مثلا توی مجرل راه نو هم با مقاله جاکوبی و اینا من این بحث رو یه ذره کردیم که ببینیم حالا بگه حالا بس بگه نظر افراده که کدوم برای قضیه رو بخوام بسنگم بگن تکسرش دروغیه وحدتش با مهم نیست که سرش واقعیه. برای نهاد جامد الان دیده میشه. یه بعد میشیه ایست در هر مورد خواهد بود. نمیشه که از آن موقع تمیشه. یا لکی کسی نمودریزش نداره. نمیشه. در آن موقع و سرای آفتاب زوران مصاردها کافه دارم میکنم. بنابراین وقتی جهان مدریزش نمیشه بدونی مودریزش نداشته باشه. سپس تی به تی مودریزش اینها یک موقعش انتقالی من دکتر ها میگرارد که آیا هایی که که مانشان به من از موسیونده اگر با نگاهی به شما میکنه چون مثلا در اینجا به روما نهی انجام به نمیتواند تقنیم به تدیبه شاید به نظر خودش نگاهیست که ماند تحول باید فایدی شما دیگه که اصاسی شما نکرد که ناکم انتدا یعنی همامیش در بیران بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیش در, در مانی که در مانی کتاب خوبی بوزیم که که میدان دیرسکی و رو چطور به ایجاد طبق کارمندی که با قیاد شمشستی آولیت بیدان میکنه که طبقی اصطلاح جنرال عربیشه مثلا به خواهی که دیگر آن تحتیل میکنه تحتیل تحتیل ها آولیت بیدان میکنه که رو نفت بود. قرار دیگه به یک ابتدایی که با یک طرح در حال طرحی مثلا به اسطانی و دوباره همین ماجرای به استراتیژی اینکه پیراتینگ و استراتژی ها مدلیده شما بصورت اصلی از این طرحی مثلا که این تاکید بر ادبیات روانان حالا شما بصورت تفیل رو تاکید در اونجا اشاره کرد این و این موضوع در رابطه با جامعه و مسیرمون که شما اشاره کردید و باز دارید این که سوال میتونم کنید رو ولی باید به زواید که احلایی باید باشه در حکرشتری کرد یعنی ای با باید خامیلی بیزن بلست نه این که محکوم کنید که ای اگر میمید مشاورت نداره پس بگیم این باید تقاوض داده من نمیشه تحقیل شد میتونم اون این نه دقیقا دهنت در این زمینه حق با شما هست یعنی خب واقعا مثلا وقتی داره این کارم رو علمان های تاکید بذاره فرزن هم مساله انقلاب و اگه تاکید بذاره خب ما هم یه تاریخچه‌ای از انقلاب‌های مکرر رو داشتیم و بنابراین میشه گفت که این الگو اینجا هم جایزه در کل من با حرف شما موافقم هم. مساله همینه که ما خودمون تجربه مدرنیته رو خودمون ننوشتیم اگه بنویسیم بعد و اینم یکی نیست در واقع چندین تجربه مدرنیته را افراد از طبقات و طبقات گوناگون باید بنویسن تا بعد معلوم بشه که کجاها رزنبلنس داریم کجاها تفاوت هست چه چیزایی در ما بارز بوده چه چیزایی کم بوده و مثلا فقط این حالت تقدم و تاخر نیست یعنی مثلا اونجا دیدیم که خب پترزبورگ ظرف مدت کوتاهی مثلا صنعتی شد فقط این نیستش که حالا نوعی مصرف کالاهای های مدرن اومده مثلا تولیدش فرزند و هیچ شک نیامده چون در خود ایرانم عملا مثلا این, این نوبت صادق بر میکشید به بحثای فرمایداری کمپرادور و نمیدونم این چیزای که انگار مثلا ما اصلا زیر ساخت های مدرن رو نداریم و بنابراین مثلا باید دهات بیایم شهرها رو تدخیر کنیم به شیوه ماهو و این حرفا که اون خودش واقعا اونی اصلا حماقته اونی واقعا عقب نشینی ذهنیه اونی عقب ذهنی آدم بره تو این بحثای نم سرمایه‌داری وابسته و این حرفا یعنی ولی خب باز به خاطر این بوده که ما تاریخ خودمون رو ننوشتیم یعنی اگه می‌نوشتیم باز مجبور بودیم از این شروع کنیم که آقا اینجوری سرمایه‌داری اومده بنابراین یه حدی ازن از, از مدرنیزاسیون واقعا وجود داره ما با اون مسئله کاملاً رخ نمیده آدم روبرو بعد ما باید فهمید که خب کجاهاش واقعا رخ نداده کجاهاش رخ داده و این رخ دادن رخ ندادن چگونه منعکست شده در آگاهی در همون مثلا تجربه آباهانه این مدرنیته و خب اینا می طلبه این که ما واقعا خوب این تاریخ مدرنیتم رو بنویسیم و خب اون وقت توی اون اگه بنویسیم این انقلاب ها هم شاید یه معنی دیگه ای پیدا کنن یه بار دیگه ای پیدا کنن از حد خاطرات نویسی یا اون شکلی از فرزن تاریخ که ما الان داریم بیاد بیرون میدونین مثلا خود مثلا انقلاب مشروطه هم باز هنوز ما چند تا مثلا وقای داریم آنچنان تحلیلی کسی فرزن کار خیلی روش نکرده که اونم از همین دیده تجربه مدر میته اگه این کار صورت بگیره خب مسلمن اقا شما از برمن خیلی میشه استفاده کرد و احتمالا روایتی که این به دست داده میتونه کمک بکنه که ما هم مثلا قصه تجربه خودمون از مدرنیتر بنویسیم ببخشید آقا قبلن شوشم. این هم از چیز شماست مدرنیتی فنسون جاید اجازه ترکیه و بزنیتی کشار که که و از این مدرنیتی باشید و این بله در اگر مورد به نظر من هر دو تاش در واقع مدرنیته از دل تاریخ غرب اومده بیرون منتهی تنها موردی است که خود اون تاریخ غرب هم یه جور گرایش به جهانی شدن همواره در خودش داشته از ابتدا و در واقع تنها موردی از جهانی شدنه که ما با یه جهانی شدن واقعی روبرو هستیم نه با ایده پرزد فتح جهان بر اساس یک آرمانی که قرار است مثلا ما روزگاری همه جهان رو با شمشیر بگیریم و بعد جهان یک دست بشه بنابراین این اصلا مدرنیتی از دل میشه با تمدان غربی اومده بیرون به خاطر اینکه تمدن غربی این احساس کنجکاوی نسبت به دیگری رو از اول داشته و بنابراین از اول خودش رو در ارتباط با دیگری فهمیده و بنابراین چیزی هم که ساخته چیزی است که فقط مال خودش نیست بنابراین یه حالت جهانی داره و نکته مهمتری اینه که این قضیه اتفاق افتاده یعنی دترمینیسم و اینا دیگه من نمیدونم اینجا چه کار نقشی میتونه ایفا کنه ما همه هستیم تو جهان مدرن چه بخوایم چه نخوایم کابوس هامون رویاه هامون حتی میل بازگشته به گذشت همون از دل تجربه مدرنیک همون داره برمیخیزه بنابراین اصلا جای سوالی باقی نمیمونه اینجا که حالا حالا اصلا از هر جا اومده من کره کوری مرریک اومده ولی الان ما توشیم این دیگه یه واقعه کاملا مسلمه و خب ولی این که حالا از غرب اومده تا چه حد به معنای اینه که همه باید اون تجربه رو دنبال کنن، باز یه پرسش ذریف است باز برمیگردیم به همین بحث قبلیمون در جنبه محتوائی یعنی اونجا که به فاکت و فیگور و اشکال خاص برمیگرده نه وحی منزل نیست هیچ چیزی نیست که حتما همه باید دقیقا اون مسیر رو طی کنن اینطور هم نیست شهرهای مدرن جهان هم با هم دیگه فرق دارن مدرنیزاسیان هم الگوهای مختلف و تجربه های مختلف دارن ولی تا اونجا که مسئله همون پذیرش اون قضیه در دوزخ بودن پذیرش اون حالت تراژیک مدرمیته رسیدن به اون بلوغ و این که آقا نمیشه در رفت از زیرش از زیر پرسشهاش از زیر تناقضاتش اگه این منظوره بله همه باید تک کنن دنده هوایی نداریم که از ما قبل مدرمیته یه موشک توارشیم بدون گذر از تلاطماتش و تنشهاش و درگیریهاش درسین به یه پست مدرنیته اسلامی فرزن. همچی چیزی نداریم. نه. قیمت باید پرداخته بشه. اگه نه پرداخته نشه، اصلاً یعنی این که تجربه تجربه کاذبیست و بنابراین نوعی خودفریبی خواهد ولی در شکلش ما مسلمه که منم قبول دارم می‌تونه متفاوت باشه. مثلا یه الگوی عجیب و غریبی از آسمون نداریم که تو خود برای اروپایی هم یه جور نبوده. من فهمونم مثلا غربم میگن، فهمی می‌کنن یعنی یه غرب، یه غرب یه غرب نبوده. ده, ده جور تیکر کرده. تجربه ای که انگلیس teve کرده قابل مقایسه با تجربه آلمان نیست. دو تا چیز کاملا متفاوته. اگر نبود که هیتلر تو آلمان پیداش نمیشد تو انگلیس هم پیداش می‌شد، چه من آره، تو خود قرم من متفاوته. خواهش می‌کنم نشه. نه اون تلاش‌ها آخرش اون چیزیه که باید اون فرآیند رو دلیل و این اون که مداتاره، دفاعی میشه. در مقابل آلمان که تون کده، خیلی خنده‌دار در ولی احساس بکنم که بخوان رو در مقام عمل میتنیم و اینکه افرازماتیسی داشته و این برنامهی برنامه بر و عملی داشته باشیم این تحلیم و و همه نمیتونی با حاله یعنی وقتی که من تحلیل می‌کنم به نظر من وقتی که دوستمون داشته شه، اصلاً صحبت بیطرف نذیک بشیم و قدرت در هر چیزی، چه اون از بالا بشه و چه اون از پایین بشه، یعنی من روشا فهمیدم که تصعصم ندارم. یعنی وقتی که با واقعیت زندگی می‌کنم، برو بیرون میشم، همین وضعی که از پایین هم میشه، اون یک سیاست مشارکتی بشه. بالای جامعه مدنی, مدنی, بزباره بزباره مدنی و جامعه مدنی باز اونجا بیرون. خایره جامعه تنزیه نمیکنه و به نظر من هم خداگاه یا نوابگاه همین کار کرده شاید بودتر و بس حدی تقدر تعبید فرد در برابر خدا از راه گزاره همین فردیت به معنای زمین زمینه‌سازی شد پس ما باید بزن الان شما هر شرطی که نظر فلسفی خوب اینو متوجه شدیم که ما کاملا ساده باشیم ولی با اون اینو شنفتید یا با اون یک سیاست نداره بیوار عملی چی آیدا متینظر حافظ عمل پایگی مثلا اون والا خب همین برمیاد اولاً اینکه ما مثلا با داریم سر روشن فکر و فرق صحبت میکنیم یا سر یه برنامه سیاسی و مثلا یه گروه سیاسی و خب همون مالشون تعریفید یعنی و... ما باید ساده باشیم همون ما در مقام نظرش وقت که شما حمله بشه که باید ساده باشیم در مقام اول چی تو میتونه ایراد یه مقدارش اینجوریه که تو غرب به قول شما این فرس شد یعنی لوتر بله با ایده مثلا ای انزوای فرد و تنهایی فرد در مقابل خداوند شروع کرد نتیجه شد فرد بوجوهای مدرن و کار به حقوق بشر و مثلا دموکراسی. اینجا یه جوری ما این فاصله زمانی رو دیگه نداریم یعنی نمیشه حالا منتظر شد که از دل یه جور تجربه دینی خیلی قلیز بعدن یه جور فرزن دموکراسی بزنه بیرون و تازه حالا حتی اگرم در یه شکلی باز بخوایم این رو تجربه کنیم اینم باز میار پیشرفت درش باز همون صداقت نهایتا یعنی نهایتا برای من میاری باقی نمیمونه جز این که ببینم حالا این پروژه اصلاح نهایتا داره به سمت همین باز کردن این زخم ها و رویاروی صادقانه و اوریان شدن پیش میره یا داره یه پوشش های ایدئولوژی که دیگر رو باز از یه جاهایی فراهم میکنه و میچفت دور خودش در این که خب اون تجربه رمبوی شاید اینجا در سطح سیاسی غیر قابل عمله خب من شکی ندارم من الان هم ندارم که مثلا همچی چیزی باشه و با بعد این تجربه واقعا مثلا تو خود رمبو و نیچه در شکل های خیلی غیر سیاسی یعنی حتی سیاسی زده بیرون. و تو اونجا هم مسلمان وارد سیاست که میشین پر از همین لباس های است که افراد برای فوشوندن اوریانی خودشون تنشون کردن ولی خب در زمینه یه بحث روشنفکری اگه بخواد مطرح بشه من خب روی این تاکید میذارم که واقعا روشنفکر حتی روشنفکر دینی اطلاقا خصوصا روشنفکر دینی باید نسبت به این قضیه اینکه ما تو دوزخیم حساس باشه. اگه این نباشه که دیگه پس از فردا روشن فکر دینی باشه ولی این قضیه رو هکس کنه که ما الان تو دوزخیم هکس کنه حالا اینکه در نحوه بیانش نمیدونم ارتباطش با توده ها اگه میخواد کار سیاسی بکنه اینو چه جوری بیان کنه اینا خب اون بحث دیگه است من قبول دارم در جنبه سیاسی و نمیدونم کار سیاسی شاید با یه مقدار احتیاط یا با قول شما یه مقدار پرگماتیسم این مدرنیزاسیونی که تو سنایاف بس مشکلیه این که با سرانقامو خیانت داره پس در آخرین توصیف شما و این توصیف تجوید شما بلند مقام عمل باشه حالا با در هر واضی که شما در نظر در هر واضی فرهنگ اقتصاد سیاست در آخرین حاله وقتیه وارد حوزه عینی واقعیش بگه حالا ولی حوزه عینی واقعی فقط سیاست نیست که فرضاً همین ادبیات که صحبتش بود خب آره من انقلاب اشاره نکردم به ضعف در ادبیات اشاره کردم برای اینکه دقیقاً اتفاقاً چون قرار بود صحبت روشنفکری باشه و یه مقدار ما تمرکز روی مسئله همین سنت روشنفکری دینی بدیم من حالا بحث بحثی جنبه عام پیدا نکنه برزن به انقلاب که به کل ملت و اقتصاد مربوطه زیاد کاری نداشتم به این جنبه های روشنفکرانه اش کار داشتم خب روشنفکران دینی ما همین که به ادبیات اینقدر تفاوتن. ا به یه من واقعا تو باغش نیستن دقیقا خب به نظر من یکی از سوزش تو داشت که نمیدونم تو دوزخن. نمیخوان تجرم تو دوزخم هستن نمیشه بگین نیستن. تهرون برای یه فرد دینی خصوصا اگه دوزخ نباشه یعنی من شک دارم در دینی بودن اون آدم. مگه چش رو ببنده یعنی دیگه من نمیدونم میزان فش و بود نمیدونم هر چیز دیگه ای که شما بخوا دوش انگشت بگذارید. عص همه الان بریم تو خیابون میبینیم پس برا برای برای یه فرد دینی باید کاملا این احساس رو بده که من تو دوزخم و این احساس هم فقط تو سیاست که نیستش که خب توی ادبیات باید یه جوری خودشو بزنی بیرون اتفاقا تو جایی که حالا سیاست خب من همین رو میگم منم همین رو میگم منم همین میگم منم دقیقاً همین دارم میگم منم هم دارم همین میگم میگم حالا تو سیاست شاید حق با شما، باید آهسته رفت و پرایماتیسی رفت و فلان ولی وقتی من میبینم حتی تو زمینهایی که جایی این نیست عملاً کار باز برمیگرده به اینکه ما یه چیزی تیکه‌ای از گذشته رو پیدا کنیم، بازی عبای قوای برای خودمون بدوزیم. خب وقت در اون اصلاح هم شک می‌کنم. که آیا پشت اونم باز بالاخره صرفاً یه گذران وقت و بالاخره حفظ و قدرته یا فرحال یه جور حرکت به سمت یه مقدار ساده بودن. ولی قبول دارم که در زمینه سیاسی مسلمه به این شکلن. من نگوام رامبو تو پاریسش هم یه رامبو بوده. معلومه که همه پاریس که رامبو نشد نه. قبول دارم از اون نزن خیلی ممنون پرونش سر